بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه ی مسافه ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر را پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه، جلسه چهل و اللهم صلی اللهم محمد و عالم محمد عوضو بالله من الشیطان اللین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، صبح شما بخیر خیر، درس ارز میکنم نایامو، تسلت درس میکنم، شهادت فرمونده بزرگه، مقاومت فرماندان بزرگی مهبر مقاومت شهید شوید شهید اسماعیل هنیه خدمت شما عزیزان راجب مباس مرد به رژیم سهی نوستی و اتفایداره میفته جدا حالا یه فیلمی زبط میکنم میذارم توی اینترنت یه ویدئوی زبط میکنم جلسه حالا فرصت نیست خیلی راجبش برداخته بشه. عباسش خواسته منم خدمت شما آرز بشم از طرف این نمیخوام بهتون تحلیل دروغ بگم از سمتی هم هر چیزی هم نمیشه گفت و یه سری آقایم هستن که به تیریج قباشون میخوره اگر ما دوتا تحلیل بدیم بیرون فلزا سکوتو میپسندم بدونید از این جهت چون میتونم از همین چیزه که آبکی سدوسی ما به خوردوتو میده اونا بگم من درست نمیدونم این کارو من نگاه هم متفاوت بعضی از مسائل و حالا با این وجود یه سری نکات حالا تا جایی که ملاحظه بشه بشه صحبت کرد صحبت میکن خب ما جلسه قبل تا بحث رابطه بین رابطه حب و طبعیت رو گفتیم آخرین سرفست که عرص محضرتون این که محبت تباییت میاره و شما شبیه, شبیه محبوب میشی و ناخداگاه اصلا مغز انسان اینجوریه ما سلولای نورانهایی در مغزمون داریم این نورانهای آینهیه یعنی اصلا اینطور آفریده شدیم که اصلا تقلید بکنیم میگن اگر شما دو تا تو بچهر توی جزیره ول بکنیم به فرض بتونن خودشون مثلا هیچ زبونی هم بلده همشه به فرض بتونن بزرگ شد. یا باشون هیچ صحبتی هم نشه این دو نفر بین هم با همدیگه یه زبان احترام میکنن حالا که این زبان چجور زبانیه؟ بله علم به جوشش بین این دو تا بستگی داره و این زبان قاعده منده برای اینکه دائم یک کلمه اون خلق میکنی کلمه تو خلق میکنی با هم دیگه رو نورون‌های آینه ای همینجوری پیش میبرید و به چیزی بینتون یک رابطه شکل می‌گیره. پس این پدیده کاملا زیستیه و اثر کردیم روحی هم هست. یعنی بالاخره هر چیزی که مغز شما مغز من و شما روش متمرکز شد، روح هم متوجه اون میشه. برای همین تو دنیا به هر چیزی که خیلی توجه دارید بدونید روح, علا... روح شما درگیر اونه همین الان بخواد جون بدید اینکه میگم میگن مثل از خار مغیلان کندنه یه به خاطر وابستگی های روحیه نمیتونه اون کنه کنن نمیتون و اجازه ندید در قلبتون اصطلاحاً باز نذارید در کسی کسی بیاد تو بره هر حرز دلی رو راه ندید می در مرتع خیشتن چریدن ممنوع و از عرصه عشق پاکشیدن ممنوع بر سردر داستان دل این سخن است ای هرز دلان برود اکیدن ممنوع هر کسی راه ندید راه میدید درگیر میشید ها هر کسی راه میدید درگیر میشید خیلی مهمه مخصم برای جوانا بالاخره این کشش غریزه جنسی وجود داره اگه به کسی روز بیماری اگه نداشته باشید باید دکتر. زیادی داشته بشه باید دکتر کم داشته بشه باید دکتر. اما خب با اینجاش کاری ندارم. من. اما اونجایی که دیگه توجه روحی میاره. خب صرفا ساجد اینه که خب بله علیه ما سلام اساس ایمانه. یکم راجع به حرف بزنیم. روایت هم زیاد داریم. منم سعی کردم تو روایت‌ها مثلا با اهل سنتم بیارم با خودمونم بیارم. پیامبر فرمودن اساس اسلام حب علی و بله اون کنزل اهل سنته درول منصور اهل سنت گفته جله دوازه صفحه صد و پنید درول منصورم صفحه صد و صفحه هفت که اساس اسلام حب به من اهل بیت من خیلی حرفه اونها متقیه هندی و سیوتی آوردن دیگه چرا ببین فکر کنیم میشه مثلا پیانبر بیاد بگه ببین کل این اسلامو دیدید جهان دو میلیارد یک میلیارد نهزد مسلمون داریم نزید دو میلیارد مسلمون داریم همه اینا هب به چهار نفر آدم هب به 5 نفر آدم هست به 20 نفر آدم است هب به ده نفر چرا؟ الا اینکه که به اینها خودش موجب رستگاری بشه یعنی خدایی که این همه میگه این دنیا رو ول کن ولی آخرت رو خیرون و ابقا دو ربط به آخرتت داشته باشه و چه دلیلی داره چیه دنیا رو خدا گفته مثلا برید سراغش خودش تو قرآن میگه اگه نمینم پدر، مادر، زن و بچه، عشیره، خونه، ماشین این چیزا رو بقول تجارت و این اموال رو فردواز میگه این گفت ماشین تو قرآن ماشین نداریم اموال اینا احب بلکم من الله و به جهاد فیسه بله اگه اینا بیشتر روش شد فاسقی بعد از این طرف میشه نرفو زد چرا تو فراز بعدی داینود دا به توضیح میده <تصفيق> که میرسیم میشه همچنین حضرت فرمود که لکل شیءن اساس هر چیزی اساسی داری یه ریشه ای داره یه شالودی یه زیر ساختی داره یه استراکچری داره اساس الاسلام به بنا اهلل اساس اسلام هو به مهلوی ماوسن جلدیک صفحه 247 حدیث 460 چرا من اینطور میفرمایید اساس چون هم اخلاقه این محبت هم احکامته هم اعتقاداته یعنی همه دین همینه دین, دین سه زل داره دیگه یا ما درگیر احکامیم از ما دین احکام خواسته ایم. حلال حرام واجب نه مستحب مکروه مباح یعنی از ما خواسته نکام ششکانه رو خواسته یا اخلاق خواسته از همون یا اصول اعتقادات درست کن میفهمی توحید یعنی چی؟ شرک میدونی؟ یعنی شرک رو باید بشناسی شرک سخته از شناسایی یعنی هم مرچه سیاد شب تاریک روی سنگ تاریک سختره یعنی اینقدر باید این بحثای کلامی و اصول اعتقادی شما درست باشه نباشه مثل دایشه درگیر میشونی بچه مردم سر می به که سر میباری به اسم فکر میکنی داری کار درست هم انجام میدی اما شما میدیم محبت به شما را هر ستا ایناتو درست می‌کنه. و یکی عمل این ستا در عمل یکی این که چرا یکیه بحث مفصلی می‌بینی شما از امیرالویت برخورد با اسیر زاره به خود حضرت و دو روز بعد میشه قاتل حضرتو میبینی بعد اینو شما 1400 سال بعد در برخورد ما ایرانی با اوسرای عراقی می‌بینی. یار داشتن اعدامی بود بعد اعدامش میکردن داشتن میبوردن یار یه لغت زد بشه. شاید برو رو که بی اینجا لغتر برای چیز اضافه تر اون حکمش اعدامه اعدام بلابی یه لغت نیست گو وایست گو عوضش در بیر قبل اینکه بیره بالا دار بعد از این اسیرای عراقی اومده بودن ایران بعد پایین جنگ برنگشتن گفتون باورم بر نمیشه ما با چم میخوام زندگی کنیم اجازه ما تو اینجا همینج زندگی بکنیم بعد اونها با اسرا ما چیکار کردن اصلا نمیشه گفت باور نکردنیه یامین شهید لajeوردی پسر مسعود رجوی رو بغل میکنه این بحثش شداست، اون بحثش شداست خب یه ورژن دیگه هم از اسلام هستش که بچه شیش ماه هم رحم نکرده دیگه می‌بینی می‌بینی هم اخلاق درست شده هم چرا این کارو کردیم؟ نه این کار بده، اشتباهه، گناهه یعنی نظر احکامی تو اینه گناه میدونی اون دونه باید جواب بدم یه لغت هر اضافه زدن باید جواب بدم امید چرنج می‌بینیم یه اعتقادات من اینه اصول اعتقادات من اینه. این محبت به کجا کرشن اساس تو درست می‌کنه زیربناتو درست می‌کنه اوست خونبندی تو درست می‌کنه و اون اصله اصل وونه می‌بینی هم زیبایی داره اخلاقیه یعنی هر چه دنیا که کی بشنبه عاشقش میشه میدمش دمشکی هم قوام داره یه چیز زیبای گولی مگولی نیست این صورتی وازی ها نیست ریشه داره پس اینکه میگه ولایت ما حب ما اهل بیت اساس دینه برای همینه یعنی به مراتب کسی که با حب اهل بیت بار اومده با حب اهل بیت ها بار اومده توی خیلی از مسائل میبینه از یه غیرشیعهی که با کل احکام بار اومده جلوتره از توی اون غیرشیعه دایشی در میاد کامل آدم گرا از توی این امکان نداره دایشی در بهت مثلا نمیتونه میگه یعنی yani, چی مگه میشه هم چی چیزی مثلا قبول نداره شما ندیدید مثلاً تو هم مامنی خود ما آدمایی و از ما که با هو به اهل بیت دارن نام خیلی احکام محاکم قبول ندارن می‌بینی کوچکترین اتفاق میفته تو کشور سریع حواله خلخال پیرزن پای یهودی پیروزان یهودی سری برچی میگه من یه شناختی از اهل بیت دارم سیر اهل بیتی نمیخونه با اونها حالی جه شد شط... اشتباهم بگی شناختش کامل نباشه. اما اون چی که شنیده دیگه به میزانی که تونستیم بهش برسونیم دیگه فطرتا ارتباط گرفته اینه که شما تو محرم کسایی تو مسجد ها حسینی ها میبینید که قطعا تو محرمزو نمیبینیشون قطعا نمیبینیشون یعنی ارتباطتر گرفته کسایی رو تو روزه میبینی که تو نماز جماعت نمیبینی از نماز نماز بعد باشه اینو میخوام این سر جوش آه من تو میخوام بگم این کشش هوبی مینی چنان تناف و از امین تو مسیر گارش میش میره بعد آشور کیشی میخواد آشور کیشیان هم باید بشه هو, هو به اهل بیت عبادته مثل نماز هم هم اهل بیت دوست داشته باشی برای تو هم کانتر میندازه اول کنتور میندازه. پرینبر فرمود یک روز دوستی آلما اهل بیت بهتر از یک سال عبادت است. یومن یه روز خیرم من عبادت استنه. از یک سال عبادت و کسی که بران دوستی بمیرد و من مات علیه دخل الجنه بهشتیه. محبت اهل خلود در جهنم نداره یه خیلی چیتون که میره یه حالی بهش میدن مید بیرون خلود نداره چرایش حالا میدیم جلو نور و, و صفحه صد کافی خودمون جلال دو صفحه, صفحه چلوشی شدیست سه. چرا این یعنی که ببینید محبت اهل جهت دین رو نشون میده و جهت حرکت از خود حرکت به مراتب مهمتره چون حرکت بدون جهت اتلاف وقت انرژی و یا حتی عدم امکان رسیدن شما به که همون اول جهت مشخص ما ماشین صبح اومدند دونود به شرق تهران غرب تهران جنوب تهران کجا بریم نه بریم دیگه فقط بریم آبیه. آبیه کجا برای این فیلم نشون میده میشین تاکسی میگه خجا برم آقا برو فقط برو <متصفيق> خب میری وسط رو به این زین تا هم میشه دیگه <متصفيق> دور میشی اصلا 180 درجه برکس داره تا رو دورت میکنه این چون جهت دین داره نشون میده خودش عبادت این اول جهت رو درست تشخیص دید بعد حالا تو مسیبت درست پیش بریم ست کیلومتر هم راه ها داریم حالا بریم ج نه اشتباه تشخیص پنجا هم دور شده لنه سد کیلومتر فاصله داری حالا اون تنظیمات اون داعشیه که ریخته به هم عادت کرده سر ببوره این چیشون میخواه برش گردونی خلق و این نادم شده سنگدل شده قسیل قلب شده ویژگی شیایانی که رعوفن مهربونن اتفاد دارن به بچه هم زور نمیگن اشکشون به مشکشونه چون بار اومدن چون امام اون این بوده امام گریه های طولانی مدت امام سجده های طولانی مدت در این حال مقتدرن مظلوم هستن سکوت میکنن اما مقتدرن پر ارزن از دهن مرچه نگرفته. به فکر بچه ما بوده شما در مورد امیرالمومنین دو جا در تاریخ داریم که از رد به صورت زمین خورده از شدتی نورد به صورت زمین افتاده امیر حیدر کرار یکی منجایی که مام حسن اومد تو خونه دوید ماتت امونا مادر امونا تو مسجد بود از رد شنید با صورت سو... نشسته بود با صورت خورد زمین یکی دیگه هم ابن عباس اشتباه نکنم نقل میکنه که یه مداشت همی بیابونی رد می شدیم اونجا ما رو نگه همون داشت حسد بر رو بر شروع که حرف زدن گریه می کن به صدای عالی بلند داد و بیداد می کرد حضرت امیر المومن چی شد آقا گویا معرفتی که من دارم نسبت به مکان تو هم داشته همینجوری عشق می‌ریخت چی شد آ 25 سال بعد نمیدارم چقدر بعد میخواد اینجا اتفاقاتی بیفته به شروع که کرد توصیف کردن اینجا اینجا بارشون رو می‌ذارن زمین چی بیابون نشون میده گفت اینجا بارشون رو زمین بعد با یه طرف دیگه نشون داد فرمود اینجا خیمه‌هاشون رو آقا راجب کی داری حرف میزنی بعد اونجا میگه که اونقدر گریه کرد که به صورت خورد زمین باید. تو میدونستین کربلای که من دارم, دارم از عزت داشته میدیده دیگه خوب. ببین مقتدره هیدر کرراره زرهش پشت نداره تو جنگ و تو اسبشو تکون نمیداد این آدم اما حواسش اون بچه یتیمه هست حواسش از الان دارن مثلا برای شیراوردن میگه به اون زاره به من هم دادید یا نه بود. تو اون حال اون حرم لغمه ابن ملجم هزار دینار حالا درهم یا دینار حضور زهن ندارم داده بود اینو سیقل داده بودن هزار تا هم داده بود مسمومش کرده بودن اون سمی که من به این زدم اون دون سالم به در نمی بره دو روز حضرت حال وحشتناک گوه این دسمال زردی که به صورتش بسته بود راوی میگه وارد شده میگوه از چهرش قابلش شناسایی نبود اینطور طور مسموشه تو اون این رو هست عواسش به اونم قضا دادید یا نه به این قضا میدید از همه قضا خودم ببرید بعد جلوش بخورید ها. جلوش بخورید یققی فکر نکنه شما چیزی تو قضا از ترسش چیزی نخوره. می‌گه وقتی <تغیق> میگم استراکچر تو درست می‌کنه، ساختات رو درست می‌کنه، ته زیبایی در عین قوام، میگه خونه عجب خونه‌ای، مثلا فکر کنم برای خانمت دست، خانمت میگی بره خونه نشون بدی. آقا اصلا جلوی نه رشته مقاومه، مقاومت خوبه. با بریخ باشه. <تصحیح> زن‌ها نمی‌پسندن. نمای خونه قشنگ نباشه. از طرح داخل چهار تا دا دیوارها گچه. بابا این یه مثلا تو ما درستش میکنیم نه به دلش نمیاد دیگه خانم این جوریه یه موقع خونه از خیلی خوشگل و فلانه با 4 هم میاد پایین جفت این رو به درد نمیخوره نه مسئله اینه که در عین قوام زیباست و زیباتر از این پیدا نمی کنیم به گردی پیدا کردیم ما مشتری میشیم به به قرآن قسم تو زیاد جامعه کبیره میگه میگه خدای ما اگه بهتر از این پیدا میکنیم می رفتیم سراغشون دیوونه مثلا خودمو گیروندیمی جایی چیمون می دن مثلا با فکرم مثلا حقوق می مثلا شما بابت این عضویت مثلا در در این دایره ای نیست که چون جهتتو درست دست و پا زدنه بدون شناخت احلویت عمرت گذشت بنزین باکتن مصرف شد علامه سید محسن حکیمه میگه من رفتدم عربستان یه رو من صدا کرد مارمزون بود میگه من اونجا بودم میرفتم اونجا بزرگشون تو مکه میدونم داره قهوه میخوره می دار مریضی یه چیزی حالا چه جلو روزدار داره میخوره مثلا گفت نه من دینه میگیرم روزان چرا؟ گفت میدونم شما برحقی می خب چرا نمیگی؟ گفت من نه بپذیرم اونا تازه می یه میشم سف کیلومتر شما <تصفيق> اینجا بس خودم بروبیه های دارن. من میدونم اون دیگه کارم چه حالا با یه قهوه چیزی این من نمیشه <تصفيق> میدونم خانه از پایبه بیرون است یا بودن از همین بارها عقل شده دیدم بالا سرشون رفتم وارد شدم دیدم مردر رو گذاشت توی قبر دیدم داره بیخه گوشش تلقین شیعی میگه گو ببین حالا علی برق بودا توجی باشی اونجا میان سوال مال میپرسن تقلبتش میرسون بیار دوستی احلبت نشانه ای ایمانه یعنی این کامون مؤمنه یا نه ببین نگاه کن برادر در من ما کسی که امام زمان وقت خودش رو قبول نداشته باشه مؤمن قطعا نیست ممکنه مسلم باشه مسلمانه مؤمن نیست احکام اسلامی در مورد او ساری و جاریه مسلمونه در مورد مسلمون رابطه مسلمون تعامل با مسلمون ما احکام دیم اما قرآن اونجا اون دیمه یا یا لدین آمنو این در مورد کسیه که امامت بفهمد پیش بشنسته حتی شیش امامی هم مؤمن نیست مسلمه چهار امامی هم مؤمن نیست مسلمه رو باید سریح داریم از امام صادق علیس گوه آقا پدرتون قبول داشته شما رو قبول نداشته شما مسلمون مؤمن نیست آیه قرآن داریم گفتن ایمان آوردیم آیه اومد نداشته کن نگید ایمان آوردیم بگید اسلام آوردیم حتی خودت قاطی مؤمنا نكون. پس با اهل بیت ایمان شروع میشه. <تصفيق> پیامبر فرمود لا یؤمنو ایمان نایورده ابدا، عبد حتی اكونه احب الله من نفسه. الا که تو درون خودش تو وج که وجدان داری، این الان من میگم که این دست منه. وجدان دارم یا یافتم در درون خود این, اکس... این دست منه در درون خودت وجدان کنی قبول بکنی و بب... که از پیغمبر رو از خودت بیشتر دوستش داشت میگه ویژهی مؤمنین اینه که اهل تو از خودشون بیشتر دوست دارن اوج نشانه این کجاست جانشون رو ترده میکن من گیسی که مثلا مدافع حرمه عرض کردم میگه به طریق اولا داره اثبات میکنه میگه من برای سنگ و چوب دارم جون میدم یعنی خدا وکیرم اونسه بود نمیرفتم ما چه حرفی و اهلی احب با اله من اهله و اهل بیت من از زن و بچه خوش بیشتر دوست داشته باشه و اح و اترتی احبو له من اترته اترته من از اترت خودش بیشتر و سو شوشه و ذاتی احبو له من ذاته و ذاتم از ذاتش محبوب تر باشه موجام که بی تبرانی جل لف سفی 838 اعمالی سادوگم داریم رحمت خدااااااله سفیدی صف سفیدش شر ازی سنو مساع کردم از منو به حله صلوات بر تو میافک نکنیم اون خودمونه نه همین که تا الان راجب اهل به اهل مثلا اهل سنت حرفی ندارم یه ماجرا این یعنی بدون خیلی ریشه داره جدیه ماجرا اش شبیهش نیست نمازت شبیهش نیست خیلی چیزات متفاوته اما این محبت این یعنی بدون خیلی قوی بوده که با بودن بنی امیه و بن العباس آنو مونده با بودن جانورایی مثل یزید و همساله هم باز هم مونده ببین چقدر ریشه داره در دین در اسلام چون بعضی میخواینه خودتون ساخته دیمور زمان مسیح و مبالاقه کرده در مورد ایساشون بابا مخالف بوده <تصفيق> آره اگه یهودی ایسا رو قبول داره قبول دارم باشه بیا حرف بزن بروین چه نسبت به حضرت مسیح میزنن جفتش یه قومن مثلا حضرت ایسا آخرین پیغمبر یهودی ها بوده خودش یهودی حضرت ایسا از بنی اسرائیل اما <مارد> به یهودی چی میگن؟ چه نسبت زبان هم به عزت مریم میدن؟ به خود عزت مسیح چه در مورده؟ اهل ساله ایسا دو اهل بیدنر بس بسک دارم آجارم بسک اینا شنیدن بس با این ای که اینا رقم زدن در حصف فضایل اهل بیت بازم مونده کسی نمیتونه بیرین که اینا تازگی شروع کردن این وحابی شروع کردن تو کتابا امیر المومنه متفاوت قیرمده گو... امی... همه ی صحابه رو میگفتن رضی الله خدا از او راضی باشه امیر المومنه میگفتن الله لاوچه خدا تکریم کرده روی مباری مدن. چرا گفتن تنها صحابه بود سر در مقال بطخ خمنک کرده بود خودشون گفتن همه خلافه همون همه صحابه قبلی دوره آموزشی بطپرستی داشتن علی هیچ وقت بعد گفتن همین هم باید حس کنیم این هم بگیم رضی الله ان همین که داریم متفاوت میگیم داریم میفهمونیم به مخاطب که او فرق داره چی اینو درست کنن تمام درار که بروی مسجد باز میشه ببندید الا بابه جز در خونه علی یه فرقی داره این خونه دیگه چجوری ماله بکشه اینو چجوری میخواد اینو کنه یا اینا مونده بارهای نایه رو خوندم چون استاندارده ماست که قول انکان آباکم و کن و کن اگه باباتون، پسراتون، برادراتون، ازواجتون، اشیرتون، اموالتون، تجارتتون، خونهاتون مساکر. احب بلیکن من الله و رسولی و جهادن فی سبيله فتره بسوحت تا الله به امره و لا لا یهد القوم الفاسقين. اگه اینا رو از پیامبر و خدا و جهاد در راه خدا بیشتر دوست شد و امر خدا و پیغمبر جهاد در راه خدا یعنی حرفش هم باید امجا تباییت بکنی دوستشون داری باید تباییت کنی دوستش داشته بشه فاسقی فتره بسو حتی یعت الله به امره و یع... لایت الغامن فاسق روی انه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بله قلامن دون البلوغ حضرت شید به یه نوجوانی که به بلوغ نرسیده بودنوز مثلا اگه 14 15 سال بلوغی مثلا 13 سالش بود امروزی بگیم بخود و بش له و تبسم فرحن بشا یعنی بشاش شد به این بشی منه چی تو اینترنت هم نیسته بعدا <تصفح> بعدن سالا و بعد اینا رو گوش میکنم میکن چی میگه لاین چون مخطعی دیگه اینه آره میگه تادید خندان شد لبخند زد فقال له پیامبر فرمو بش اتو حب بونی فتا دوست هم داری منا جمیه خنده تو شوق فقال ایو والله یا رسول الله آره والله دوست دار فقال له مثل عينيك مثل چشات فقال اکتر گوه بیشتر فقال مثل ابیک مثل بابات فقال اکتر از اونم بیشتر فقال مثل امک مثل مادرت فقال اكثر فقال مثل نفتک مثل جان خودت فقال اكثر والله یا رسول الله یه نوع جوونها گوه والله از جون هم بیشتر جوسته اینجا پیانبره به این چی میفهمد؟ فقالا امثل ربک مثل خودات فقالا الله الله یا رسول الله ليث هذا لك ولا لأحد فإنما احببتو لحب الله و این نه در مورد شما سموده هیچ کس دیگه اصلا تو ست درم احببتو لحب الله بخاطر چی بخاطر خودات همیشه برای اوست فلتفت فالتفت النبي رو کرد به صحابهش فرمود هكذا همه تون این شکلی باشید مثل این بچه احب الله لإحسانه إليكم و انعامه عليكم خدا رو بخواید بخاطر خاطر اینکه دارو ندارتون به او برسته حیاتتون از اوه نعمت ها همه ماله اوه منم او به شما داده منم او به شما داده و حبونی لحب الله و منم دوست داشته باشید به خاطر دوست, دوست داشتن خدا پس چی شد این محبتی این اهمیتش به خاطر دوست داشتن خود خداه در راستای خود دوست خود و خداست یعنی طرف میاد هیئت بر میگردی یه نفر میبخشه دست و لشقه بوده میبینی؟ طبعی. رفته حرم امرضا میگه بذار کینو کدورت رو بذارم کنار قصاص میخوان بکنن چیا میرن این که میخوان برن رضایت بگیرن پرچم حرم امرضا رو بر میدارن یعنی خادما دونه دونه دوره میفتن این کسا که قرار اعدام بشن خونه خونه‌هاشون میگن بهترا امام رضایی میگه چی میشه حالش امام رضایی میشه خدایی میشه مثل خدا میبخشه و ارحم راه دیگه 100 بار بهتون گفتم اگر میخوای بدون خدا چه جوری حرفت رو گوش میکنه اینو تصور کن که بلا تشوال مثلا فرض دیگه الان ابوالفضل اون طرف نشسته بعد یه خرابکاری کردی داری صداش میکنی ده بار صداش میکنی یا ما حسین یا با عبدالله کی برمیم میگه بله ميگه خراب کردم چقدر گمان داری بگه نه نه نه خب نکنید او شعبه ای از نور خداست <تصح> ببین خدا چجوری ببخشی برای این فرمود یه بنده من که ده بار بگیه یا الله یا الله یا الله یا الله میشه جاواج نده با این باور بد بری به درگاه خدا یا میگه هفت بار بگیه یا رحم رحمی یا اینا ده تون حرف. اما یه چیزی دیگه هست میگه یه بار فقط بگه بگیه بیه فقط کافی بگیه یا اله اله الاسین. ای خدای گنه کار راه میبر میگه میگه چکار هم داری؟ اینطوری میبخشه این حب چون تو اون مسیر منطقش اینه وگرنه چون باید مثلا آقا فرض من برای تشمیزم مثلا یه چی بگید لیوان مثلا چه ربطی داره به آخرت من به سعادت من بایید نه به دینه من رب داره نه به دنیام رب داره به چه درد میخوره اساسا این نرشاد غلوب صفحه 161 دوستی احلبت نشانه پاکی ولادت که رواحتیست خیلی زیاد داره دیگه من یاد نشد تاش دوتش ب پیانبر اشاره کرد به امیرالمایی فرمود ایوه الناس امتحون اولادكم به خبه بچهاتون رو به خبه ایشون امتحان کنید محک بزنید فین علیا لا ید او الاد علی به سمت زلالت دعوت نمی کند و از هدایت دور نمی کند فمن احبهو فهو منکم و من ابغضهو فلیس منکم اگه بغضاشین از شما نیست ترجمه ممالیت تاریخ دمیشت جلد دو صفحه دیویس رویس باید حدیث 730 امیر خودش می فرماه در وسیعت پیامبر به ابازر کرد اومده که یا ابازر من احب بنا اهل البید هر کسی ما اهل البید دوستش شده بشید بس خود رو باید حمد کنه بر اولین نعمت ها قالی رسول الله ما اول نعم اولین نعمت ها چیه؟ قال طیب الولاده پاکی ولادتش. انه لا يحبنا الا من زیرا دوست ندارد ما مگر کسی که بله اعمالی صدوق صفحه 450 دوستی اهل بیت روز قیامت پیامبر فرمود اول ما يسل اولین چیزی که سوال میشه ان العبد یا انا عبد از اون بنده رو سؤال ازش میپرسن خب بنا اهلویت خب بنا اهلویت چرا؟ چون ارز کردیم در واقع همون اول میگهیم فرشته معترم اول جهتش رو ارزی کنیم درست رفته یا نه اصلا شهر مقصد اصلا درست انتخاب کردی یا نه بعد وارد نحوه رانندگید میشن اول من مسیر درست رفته یا نه دیگه اصلا نحوه دیگه مسیر غلط رفته بشه مهم نیست اهمیتی نداره هرچند همون هم بررسی میشه آن یه عمل مثقال دارت شرن یه ره یا خیرن یه ره اول کدومه درست رفتن بله تو ریل بوده تو ریل بوده ای خب این فیلم بگید چی حالا این سراغ مرحله بعد حالا اولین ساله مهمترین ساله همچنین فرمود روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمیدارد تا آن که از چهار چیز سال شود چو عمرت را در چه راهی صرف کرده ای؟ از بدنت در چه راهی کار کشیده ای و مالت را در چه راهی خرج کرده ای؟ و از کجا به دست آوردی؟ پول را کجا آوردی حلال بوده درست هم حالا خرجش کردی و از دوستی محل بود که اصلیش هم همینه موجم کبی جلی 11 102 پس مودت در عملی کردن آن است. میارزه باید زور بروز پیدا بکنه خواه محبت درونی داشته باشد خواه نداشته باشد تو میدونی میگی من با مثلا از تری زده بابامو کشته تو جنگی مثلا خیبر با اون قلبه زیستی حبی که دو جلسه قبل صحبت کردم مفسر راجبش هنون نتونستم قلبه کنم اما عقلم میگه باید این دوستش داشته باشه باید باش همراهی کنم تا معلم میگه که این مبصر لزومی نداره آشقش باشید میگه برپا بگی چشم میگه برجا بگی چشم بعدها خوب هم بنویسه من مبنا قرار میدم از اینجا شروع کنید پس اصل ظاهره درست کنید چون عقل دارید افلات عقلون چطور داری تلخی که تلخ میخوری؟ چه حسابی؟ چون عقل داری. میگه باید بخورم این غذا رو نخور. سختی برخور پرهیز داری. طرف قند داره، چربی داره، اینا مثلاً چه می‌دونم اسیدوریک داره. میگه گوشت قرمز میتونه بخوری، اینا میگه چی میتونه بخوره؟ چیزی بخور, بخور سخمی گزرونی، میگه عقلم میگه. میگه اینجا شروع کن، اما با شناخت، استدلال و تحقیق و پژوهش این شناخت محبت واقعا هم میاره تنها راه نجات بدون کی از محل نجاتش و وسیله نجاتش دوری میکنه یه نظامی شما سمت اصلحهش برو اصلا یه عضوی از بدنشونه میشن تمیزش میکنن میرسیدگی بهش میکنن که نگو یه وسیله نجات شما نمیتونید جلقه اون بیستید زوانه به در مورد اینکه ولایت اهل بیت تا کسی قبول نداشته باشه مثلا این سرفصل جدایه خب بذارید یه جای دیگه راجعش جا صحبت کنم چون ببین برادران اهل سنت ما همه موه پهلوی تن اون که نباشی اصلا ناصبیه هیچ چیزی بلدش نبود خب آدم نی آدم نیست چه برسه مسلمان بشه خب شما مثلا این ما عربستان که رفته بودیم هج رفته بودیم هنوز هم بیخوردیم فعالیت تبلیغشون ادامه داره بعد مثلا ما یک کتابچه ازشون گرفتم همجد مطالعه می‌کردم. مثلا دیدم همونجا مثلا چقدر با تکریم از احلویت کتابشون یاد شده از همونا وحابی آبیا. گفتم نمیتونن خب. ناسبی روز اگه محب احلویت هستن منطبع این خدا دو دوتا چارتایی داره برای اینکه ببینه آقا این پیام ابلاغ شده یا نه ببین بلق ما انزل الیلک میگه نه ابلاغ بفرمایید مثلا شما یه نامه ایه. یه به نفر دادی میگه که میو اینو برو ابلاغ کنید بعد نامر بدید کامل بخونه دیگه یا براش کامل بخونی بگید احزاری مفصله دادگاه یا توجیه شدی تفهیم تام دادگاه توجیه شدی فهمیدنه برای چی متهمی یا نه درست شد میگه این ابلاغ واسه ابلاغی اومده است برای همین دیگه میگه این ابلاغ صورت گرفت اگر ابلاغ صورت گرفت و اصر حاضر اصریه که کسی نمیتونه به دسترسی ندارم یه خوش شرایط چیه؟ سخت یه مسئله دیگه داره. ببینید من خب خیلی با اقلیت های دینی مذهبی مختلف صحبت کردم بحث کردم مناظری کردم همین <تصفح> پریشب شهادت ممسجدت طوسای یک نصف شب تو یه جمع ده تا 15 نفره آدم هم چرت ما سرونام ممطنین شصت و چرتو ما با بابا رو, رو نگاه کرده بود مثلا کلی شوپه داشتم از ازدواج پیامبرانم چه چه چه داشتم جواب از اینا هم بود که شاخه به شاخه می‌کرده ای پدر صاحب بچر در میرن میگفتم بابا علام بیر بیر دو سرغ همش میام یه دقیقه صبر کن خب صحبت سرینه مثلا برادران اهل سنت ما قبول ندارن که تو قدیر همچین چیزی ابلاغ شده میگن صرفا دوستی بود ببین؟ یا مثلا میگن حمله به خونه حضرت زهرا اتفاق از بی خوب نبوده اونجا من سال دوم میپرسم میگن باشه سب کن اگر بوده باشه چی؟ این جوابه بده ببین ابن تیمیه میگه بله او آدم حمله کرد با اوان انصالش اما بخاطر زبانم لا لا لا به خاطر اموالی که علی و فاطمه از بیتولمال سرقت کرده بودن تو خونشون رو نگه داشته بودن میخواست برو اونا رو بیاره ببین این جانوریه قصهش فرق میکن اما اون که میگه نیست میگه باشه اگر باشه چی کسی که این کاری کرده باشه نظرت در موردش چی؟ اگر برگشت گفت نه اگر باشه اشتباهه او یه چی دیگه هست یعنی تو فرض سال شما رو قبول نداره ریشه رو قبول نداره اما اگر گفت نه باشه با این وجودم اگه داده باشه خوب کاری کرده نه دیگه این قصتش متفاوت میشه این یکی دیگه میشه خب اینا مهمه رابطه داریم حالا اینکه چون سرفصل دیگه از دعا خارج میشیم از مسیر بحثمون الان جدای روزی من انشالله راجع صحبت میکنم اما اینکه پیام رسیده باشد به او بستشتر. مثلا آخر و زمان اینجوری میشه بخواد با واسط این رسانه‌ها الان شما کیو میتونید بگی مثلا فلان کشیش مسیحی تو اون ور کره زمین تو آمریکا کلیساش کلا 100 تا آدم داره ببینید کلیسا اینا اینجوریه پروتستان من تا یه فرقه خودش 100 نفر همین که داد نفر طرفدار داشت. یه فرقه ای بود کلا 50 نفر. بعد اون معروف شد. اصلا قرآن چی که معروف شه؟ همونم هم میبینی برای خودش یه پیجی و توییتری و نمیدونم یه و کانالی یه چیزی داره میتونی ازش سوال بپرسی. کسی امروز نمیتونه بگی من دسترسی نداشتم. بر من با قضاوت امروزون ابلاغ توسط های اجتماعی داره صورت میره برای این متوجه شیطان متوجه شیطان گور خودش کنده. تمام این دست و پا زدن ها داره زهور رو می‌کنه میکنه و داره اون مسئله ریشه ای نزج و ریشه میگیره یعنی باید حجت تمام بشه جوری میشد کل دنیا رو حجت تمام کرد و خبر بهشون رسون و امکان دسترسی رسی برشون فراهم کرد ببیندارن چیکار میکنه اینترنت رو بالون بذار ببرن رو لایت در راه های و پامی رو نه کواه های اونجا هم بگیره درانت موهواره دستروش سرعت آنچنانی نمیدونم. نادرت گورو خودشونو میکنن. اشارات همی بس ها هست که میگه آقا مردم کف دستشون نگاه میکنن. همه دیگه گوشی دارن. بچهای کوچی یه کرونا اومد ببین. یه کرونا درست کردن، اینا آوردن، این کارو کردن، چی شد؟ حالا همه سامانه شاد و نمیدونم چی همه باید. اونا بچه بچهام دارن با گوشی کار میکنن. یعنی خودشون دارن زیر ساختش فراهم میکنن. نمیفهمه اون که دنیا میشه یه, شع... یه خونه هم از حالا با خبرن میتونن اتفاقات رو شیر کنن به اشتراک بگذارن میشه هی تنیه رو به شهاده در کسر از ثانیه اخبار پخش شد و فلا اونو اکس و, و تظاویر و فیلم و چه و چه و چه از تظاهرات از محکومیت ها از جلسات و از دیدار و تشیه و نماز و همه چی پخش سری کل دنیا همه دنیا خبر دارم. من دنیا منتظر یه خبر دیگه ایران کی می‌خوام بگم. می ورم قواما چه جوری می‌خواد؟ منو گمانه‌زنی می‌کنه. قبلا من اینجوری بوده. با کفتر نامه می‌نوشت و نمی‌دونم حالا کفتر می‌رسید، نمی‌رسید. تو رو حوس جوفگیری می‌کرد، نمی‌کرد. یادش میره مثلا نامه رو ول می‌کرد، میره یه جا دیگه. هر جور قصه داشته داداش من. یه گربه ممکن بود مثلا یه کفتره رو بخوره کله مثلا یه به باد بره. چاپاره رو بعد رامین به تاخت برو مثلا هم فلانجمیه شهر خبر نداره اینو شما با الان یکسان میکنیم تو ادامه دو این سرفصلیه چقدر صحبت کردم خب یه خورده طولانی میشه این جلسه اشکال نداره تمومش کنیم یه سرفصل طولانی میشه یه صلاحات اینات بفرمون خیلی مهمه خوشگلی دای ندبه اینی که بحثای قشنگ قرآنی داره شما میبینید مثلا ما داریم جا دای ندبه را توضیح میدیم کلی بحث قرآنی تا الان یعنی از اوناست که حجت تمام میکنه از همون بلغاس. تو ادامه دایه میفرماد که فقلت و شمای خدا حق تعالی فرمودی بگو از قل لا اسالکم علیه عجرن الا المودت فلقرب همه در موردون و قلت و دوباره فرمودی جای دیگه ما سالتو کم من اج من چیز شما نمیخوام بگو بایشون بگو من هیچی ازتون نمیخوام الا مودت در مورد نزدیک کنم دوم بازم فرمودی ما سالتو کن من اج چیز اشتما نخواستم حالا فاولکم مال خودتونه بابا آمامان هدیه بر روز پدر مادر چی بخرم با تو آدم باشی بهترین هدیه بر ما شنیدی بارا هممون شنیدیم این تو درست درس تو بخون بهترین هدیه برای من تو آدم باشی بهترین هدیه بر منی تو درس تو درست درست بخونی فاولاكم. من چیز از شما, شما چی میخواد من بدید چه چیز دندانگیری دارید مثلا جذاب باشه برای من پیغمبر آ این چیزی نمیتونه شما من بدید. به درد خودتون میگم. و قلت ما اسالكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى رب حسبيلا. و باز فرمودی ما چیزی از شما اجر هیچ اجری ازتون نمیخوام. نه پول میخوام نه بالاخره کیسی یه دو تا بیلم برات بزنی چیزم بدی تا عرقش خوش نشوده. هیچ نمیخوام. الا این که این راه به سمت خدا خداست الا اینکه با این راه به ادامه کنی به سمت خدا الا اینکه این همون راهه به سمت خداست الا برای کسی که میخواد سمت خدا بره عجب پچی شد یک من چیز زردستون نمی‌خوام مگه درمدام نزدیک کنم دو به در خودتون میخوره. سه این همون راه برای خودت است سه تا آیه مختلف سه جای مختلف حضرت میاری اینا کنار همدیگه می‌شینه، ببین، یه معادله است دیگه یه معادله است یه طرف همین رو برابره بعدش یه الا داره پس معلومه اون اللّای، اون برای هم باید باید چی باشه؟ باریکرلا سه معادله، سه مجهور که اون سه تا یکیه، یعنی این که در مورد نزدیکان من همان راه خداست که به درد خودتون می‌خوره این چکیده مقاله دو خط اولش حالا بریم جلو اینا کدوم آیاتن این بخشی از یه آیات بزرگتریه بریم ببینیم اونجا چه خبره خیلی قشنگه گوش کنید سوره شوره آیه 23 ذالک يبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات این همون بشارت که خدا به کیا میده دقت کنید عباد عباد آمنو به مؤمنین داره میگه این مودته برای که برای که الله و عمل و هم جهتشون درسته هم در عملم نشون دادن فلز و مودت میشه دوستی کردن است هم جهتشون درسته هم رانندگی درستی هم انجام ردن کمربند رو بستن 120 رد نکردن اینارم رعایت که چی قل لا اسالكم علیه اجرا الا المبدته في الغربه مخاطب من خدا کیان اون مؤمنینی که اهل ایمانن و عمل سال انجام میدن که برو بهشون بگو فقط اونا میفهمن رو اونا از سر می و این به درد اونا میخوره بقیه شوتن و اگر کسی حسنه ای انجام داد نزد لحفی ها حسنا زیادش هم میکنیم الله غفور شکور من هم می بخشم همش اهل شکر یعنی پاسخ خواهم داد قطعا میبینید گفتیم آخر آیات مثلا علی منخبیر این هم جعلکی نیسته و این کلمات دقیقه یعنی به واسطه این هم بخشیده میشید هم جزا میگیرید با همین دوستی. یه <تصحنت> <تصحنت> از این واسطه مودت فلغور با یا های اصلا کاری نداره میرین فل قربان مثلا زنای پیغمبرم شامل میشد یا نمیشده اوکی اصلا همسر رو پیغمبر فرض کنیم شامل میشد فرض کنیم این دیگه چرا باید دوستی 4 پنج تا آدم در نفر نه 20 نفر نه صد نفر با اسمش خدا بیاد و صد بگه آقا هم میبخشمتون هم جزا میدم مؤمنی عمل سال انجام آقا دمت گرم بریم بهش <تصفح> چرا خدا چرا کل داراییش داره نداره شو آخرتشو گره میزنه به دوستاشون چند نفر منطقی و عقلی میخوایم بس فقط هم دارم های قرآن میخونم بعدی سوال 46-47 قل انما عایزو کن به واحده من شما توصیه میکنم موزه میکنم به واحده انتقوم لله مثنا و فراده در راه خدا قیام کنید جمعیر درسته نبود یه حداقل دو دوتا نشد تکی ثم تفک کرو بذشت ما سا ما به صاحبكم من جنته این همراه شما این پیامبر شما جنون نداره ببین نکنه دلالم گفته این مجنون مجنون هم به معنی دیوانه منزور بود نازل به معنی جن زده یعنی این حرف حرفای مثلا الهی نیست این هو الا نذیر لکم اومده انذار بده به شما از عذابی که پیش روست شوخی نگیرید دا اصلا قصه نیستش که قراره به جایزه ندن این لیوان بر هر کس این کار انجام نویدیم ندادش این بر چه میدونم مواد مزاب و من این چیز دیگو، دیگ و میبنم. سیخ داق ار داق کنم کف دست خوشتون میاد اینا گرفتی تا اینجا در عذاب شدید پیش روز چی بعدش قل ما سعالت من اجرن فهوا لكم فبر خودت خوبه بیچاره برو خود جمع کن شوخی بردار نیست خطری در پیشه این هوالا نذیرون ببین به شرط حس فرده دقت فرمودید به شرط حس میگم گی بادرم من میدم او خطر در پیشه در راستا قهوه خونم قهوه خونه چی میگم در راست چطور اوصیم مثلا اونجاست ثوبنی عملتی بزنیم اینه دره در پیشا قول ما سالت کو من عشان فهو لكم ان اجر الا لله لازم شما مال نرونی ساج من خود خدا فقط میتونه بده گردن خداست بر خداست خدا میتونه جس شما اصلا چی میخواد من بدین مثلا شما و هو کل كل شيء عجب مثلا من شما گفتم بگو و هو على كل, كل قدير فعه و سوره من مثلی اذن برامینه شاهد تمام این مراحل بابا خیلی وحشتناک عذاب میفهمه یعنی ید عذابن شدید یا عذاب شدید جل خود خدام شهید بالا سر و ایستاده تمام مراحل رو چک میکنه که تو اجر مناعت بدی اونم <laughs> برای خودت خوبه اما حرف پدرمادر پنجه شیش پنجه اون یکیشونه و ما ارسلنا که الا مبشران و نذیرا ما تو رو نفرست الا این که بیای بشارت بدی و انذار بگی بهش جهنم بگی اشغال عذاب خطرات رو بگی دیگه آقا بگی این جاده دره امون قوه خونه سیاسفید ده رو بگی براشون بعدش قل ما اسعلكم علیه من عجرن الا منشا انگ ت خدل آرا بهی سگه. باخ راه خدا دبار راه خدا میگیری گری و گوش. راه هم یه خط وسط داره این بشارتی. هم دوتا گارل داره و قللا این چیه؟ انظه. اینجا بیرون نری اینجا برو یه این خط وسط رو نگاه کن معنی هم داره نمیم ممتد بود یه معنی داره دیکه دیگه بود یه معنی داره. فقط این سه تا آیه نیست ما یه آیا... حضرت وقت نکردین اینا نمی‌شد دیگه خود این الان از نظر اسم داینوت بس من براتون بخونم آیاشو اما بدونیم جای دیگه قرآن هم اشاره به همین هست یعنی اجر رسالت کلا بعد در بیاریم چی قصدش فقط اینا بر پیامبرمون بوده نه پیام دیگه هم هستن اصلا به پیامبر خودمون میگه ببین اینا من پیغمبر قبلی‌ها هم گفتم و در جریان باش یونس 72 فأن تولیتم کن من اگه شما روی برگند دودید نصیت من قبولی نکردید من از شما عجر نخواستم این اجر لا الله. اجر من تنها بر خداست و امر تو انکونو من المسلمین من امر شدم که تسلیمم رو باشه و باید بیام این رو فقط به شما بگم از من خواسته شده بیام بگم در جریان باشید چون چه عجره میخواه به من بیده سوره هود 29 و یا قوم ای قوم لا اسالكم عليه مولا مو پولی از شما نخوستم مالی نخوستم ان اجر الله الله اجر من بر خداست. و ما انا بطارد الذين امنوا من طرد کننده مؤمنین نیستم انهم ملاقو ربهم اونا به شرف ملاقات خدا میرسن ولکنی اراکم قوما تجلو من منم شما خیلی نفهم و جاهلید قوم جاهلی هستید گفت پول نمی قبلا گفت عجرین نگو مالن اینا متفاوت دارن اینا خلق و خوبی اونق اون اینا مالیترن دقیقا همه چی باید سریع تا میگی به دو تا سل شماره شبابت میده پنگ واریزی چک میکنه کاردا انجام میده سریع مالی می نمیتونید به من بشون کشید اگه من مومن هم کنار کنار وقت ز... ماجرای زلغرنه این هم ارزد کردیم تو, ما... تو ب... هنگام زهور هم همینه قال یادلغرنه این این یعجوج و معجوج مفسدون فلس فحل نجعل لک خرج یه پولی بدین ما را از اینا راحت کنی انتجعل بیننا و بینه هم تا بین ما اینا یه سدی سد بزن شهر اینا راحت یه بی پولی یا شما کارت تا اعلام کن واریز کنیم شما میگه نمیخواد او هم نمیخواد بعدش شما میگه نمیخواد خودتون باید بید بر خودتونه فعینونی خودتون باید بید کمک هم کنید شعرها صد و شیش اذ قال لهم اخوهم نوه برادرشان نوح یعنی از قوم خودشون یه جاهای اخوهم عصب کرده نمارد بعضی ها برای از یه گذاشته دیگه از خودشون بود یعنی پسر اموشون جو بود پسر خالشتون شهر بود و قال لهم هم اخوه هم نوحن الاتتقون نمیخواد آدم بشید نه جدا سوال دارم مثلا <تصفيق> نمیخواد تقوا پیشه کنید شما مثلا، الاتتقون اینی لکم رسولون امین با من فرستاده امین خدا هستم برای شما فتق الله و عتیون تقوا کنید از من اطاعت کنید و ما اسالکم علیه من اجر عج. ان اجر الا لا چیزی از اون نمیخوام اجر من برای خداست رب العالمین به خدا بروردگار جهانیان است و جهان هاست فتق الله و عتیون پس خدا باز دوباره تقوا کنید اطاعت کنید قالوا ان نؤمن لك واتبعك الارذلون به تو ایمان بیاریم و در حالی که یه مش آدم فرو دورتو دور تو گرفتن اینجوری ساختار طبقات اجتماعی بوده و این بدبخ بیچاره دور نوه جمع شدن اونا سریم یعنی کیان دورتو تو میرفتن یعنی که مستکبرین سری اینجوری میگفتن دیگه شما چه جریانی که کجایی به کی هستید چما؟ چند تا مثلا آدم حسابی توتونه؟ سهری بیاد ببینم چون خودشون فقط آدم حسابی می دونستن؟ جریان مبتزلی هستید بیده شما استکبارها خلق استکباری آدم به این سمت میکشون، خدای نکن اون که مسلمان باشی نماز بخون اینجوری حرف بزنی حتی به عکل ارزالون آدم های پرومایگان این جامعه ما رفتن سمت تو بعد فضا جامعهشون شنون دست که بلا فاصله بعد این آیاد یه داره بس این ساختار طبقات اجتماعی شکسته شده آدم دارن دست بندی میشن اینا رو لازم داری برای ظهورا میرسیم برای آخر زمان سوره حوت یک یا قوم لا اصل لكم عليه اجر ان اجر الا الذي فطرني افلا من شما چیزی نمیخوام اجرم بر عهده اون کسی که من خلق کرده عقل ندارید اینجا میگه اصلا کمک شما به چه درد من میخوره اصلا شما چه چیز باقی میتونید به من کمک کنید اصلا خونه میخوای به من بدید خب بعد, خون... بعد مردم چی میشه بعدش خونه رو میتونم بخودم ببرم چی اینجا باقیه کسی که جان داره میده نه که جان دادن مردن جان اهدا میکنه بالاترین دارایی هر کسی چیه جونشه مریض بشه مریضی سعب و للاج چجوری کل دارایش رو خرج میکنه جز اینه همه رو فدای خودش میکنه بعدی اون کسی که بالاترین دارایی رو به من داده جان داره من که یه چیزی بده آقا شما چی میخواه به من بدی اصلا پیمبر هم ملت میگوه آقا بیاید پول بذاری دنگی من یه خونه بخرم نمیخریدن براش جون داره برای پیمبر میده خواسته خب چیکار کار مثلا اصلا وسیعت چی،, چی از بش به مونده یه عقل ندارید این رو شما اصلا نمیتونید هدیه درسته اصابی در خوری به من بدید مثل همه خانوما که مثلا میرن از خودت پول میگیرن میرن بعدن روز مرد بعدی یه جراب میخرن یه خیلی به خانوها نرکنه مثلا خود پول میگیرن میرن مثلا بعدی یه لباسی بخرن یه بعد لباسن هم جرد داری مثلا بگی من رنگش خوشم نیومد مثلا شر و در راهه بعد چی کام کنیم؟ اوه میشه بلش کنیم من خودم میرم میخرم پول. به خودم بعد بدم خودم انتخاب بکنم حقاحت اینه دیگه چی میخوایی مثلا به من بدی؟ پس این نمیتونید اصلا عجری بدید این بعد جا بیافته چنین مدرم ماله رو کشیدن خونه بقلی در مذهب همسایی آمده ماله رو کشیده رفته دیگه آیا قرآنی ای درست در اصلا حدیث خوندم فقط دارم آیا براتون میخونم کمک شما اصلا باقی نیست ولی تو خیرون و ابقا این که دو روز دنیاست اصلا ناس نایمون. مردم خوابن بیدار میشن تا دوجه میشن ای خواب بودیم اه تو خواب دیدیم ماشین داریم عجب خوابی بود آره خواب دیدی خیر باشه اینجا خرم نداری خیلی ننازیده همین چیزم میره این... حرکت س... سینوسین قوسی که وجود داره برای همین دیگه بچگی شروع می‌کنی میای به توانمندی میریسی آروم آروم دوباره همه اونها رو از دست میدی اون آخر آخرش عین بچه دوباره به چهار دست و میشه عین بچه که از اول دندون نداشته دندون برات نمیمونه از مائی بیبی میریسی به ایزی لایف از پوشک به پوشک دنیا همینه مول ابن آدم و الفخر اوله هو نطفه و آخرره جیفه فرزند آدم را چه جای فخ فروشی است؟ اولیس یه نطفه بود آخرشم یه لاشه میفتی <تصفح> چی می نازی یه روز دیر دفنت کنن گند دمه جا رو می گیره <تصفح> شعرات 125 ببرد در مورد حضرت هوده <تصفح> اذ قال لهم اخوهم هود الاتتقون انی لكم رسول امین فتق الله و عین همون آیات تکرار شده می چند بار برای پیغمبر محترم و تشویشنگ میکنه بعضی یا مثلا این نداره و ما اسالکم علیه من اجل ان اجل الا علی رب العالمین اتبنون نه به کل ری ان چیه سر هر تپه برجی بنا میکنید اراده این قومه فهمیدی می خوناروش چی میسازید می نو منم یه اجری احتمال یه دو دانه مغازه بهت بدیم چی زنه شما خواستم مگه اینا رو برای چی دارید میسازید برج سازی تو جامعهش بوده اون یکی تضاد طبقاتی داشتی گرفتی دیگر سرفصل و دیگه می بابا دارای شما احمقانه از نظر من چی چو دارم میخورم احتمالا اومده گفت آقا سند تکبرگ الان آماده است به نام بزنم منم خوا دو دست از شما داردن. برو آدم باش ايه مش بهار رو دی؟ برای خودت خوبه. شعرا 142 به بعد این یکی در مورد حضرت صالح. اذ قال لهم اخوهم صالحا الا تتقون اني لكم رسول امين فتق الله ای اکرار. مینی و اي نن تکرار می‌نی؟ وما اصل لكم عليه من اجر ان اجري الا علی رب العالمین تتركون في ما هاون و فکر کردید همینجا راحت امنی هم مونید اینا مال شما میمونه بابا اجر دنیوی شما اساسا باقی نیست این دنیا باقی نیست اصلا چیزی نداری این اکسترنال با تو نمیاد حرکت کن بیرون میمونه تو رد میشی تو این دنیا میمونه حالا الذي جمعت مالا و هی خونه زیاد کن تو گور میتونی ببری، هی hey, عددش رو زیاد کن بعد داده، یه جونم می‌تونی ببری. شعراس 164 به بعد در خواهد زد اللوته. اذ قال لهم اخوهم لوتون، آلات تقوون، کذبت قوم لوت نال مرسلین. You نا تکذیب میکردن اسقال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله بعاتيون وما اسالكم عليه من اجر ما شما اجری نمیخوام ان اجری الا على رب العالمين اتاتون ذكرانا من العالمين ترجمه فارسی چرا از میان مردم جهان با نران میامیزید <تصفح> هم جنس بازی گرفته و جامش همین چوجو میکنید دو زارتون افتاد تو أولیمپیک میگی چی شده؟ افسانه المپیک چرا اینجوری دارن؟ آه. حضرت والیاس از شاهکار میکنه همه ی رو جمع میکنی میشه اون. این با داد جالیوم و واجه هست که اون جغلا داد هر عصری امگوش کشیونم نمیشه این همه رو با هم میاره. بزرگترین نوع کفر و شرکه و گمراهی بشره سیستماتیک میکنه گمراهی بشرو رو عرضت اون میری میگه چی شده چرا رفتت به جون هم مثل آدم برد ازدواج کنید دیگه ها اول آبنات این کنتون فاعلین این کاره اید بید با دختر ازدواج کنید دیگه فکر کنید این کاره اید این کنتون فاعلین عرضت لود نگفتت من جورت بگیم شاعروس صدا افتاده به بعد اذغال لهم شعایب به هم که معلمون دارند گشی اذت شو علّت ه تحقق اینی رسولن امین فتقو الله و عتیق اون و ما اسالکم عليه من اجرن ان اجری الله علی ربه العالمین او فول کهایل ولا ه کونم را المخسرین چرا کم فروشی می چرا جای یک شیلو و از نر رفته اسکاری که 90 گرمی گذاشتهی کم فروشی با گران فروشی یه چیزه شما کیلو رو بعد ده هزار تومان بفروشی مثلا وقتی اینو 900 گرم می‌کنی، یعنی گرانتر فروختی دیگه. 90 گرمو گر ده هزار تومان فروختی، 900 گرمو بعد نه هزار تومان می‌فروختی، پس گرانتر فروخته، کم فروشی هم گران فروشی. قوم چی؟ قومیه که مردم دنبالن، آره قیمت‌های آن شنایی تو با چه رو توانور کنی، دیگه یه برحله شده کاسه حبیب خدا نیست فاکستر رو به تحویل در دارد طریق پاچت سریع یه دقیقه رو توانور بکنی یه چیزی سفارش میدی، یه چی دیگه میگیری <تصفيق> <تصفيق> چی؟ آره یا مثلا اون با نتیه وایستاده داشته کیلو مثلا اینقدر می آی وای می, می که نیمه شد با فونت دوازدن نوشته با فونت افتاد دو حالا اینه دیگه حالا یا پیاده شدیم دیگه برای این دوباره سوار ماشین چی بردش؟ یا دیگه نمی این کیلو هم برزنی دیگه <تصفح> آره اونم راست میگه. قدیم ما زمان می رفتیم مثلا نوشابه بگیریم گفت به شرط ساندویچ شه. نوشابه اون قهتی بود، چی بود نمیدونم والله. ما باید ساندویچ رو به نوشابه بدم. یه چیزی هم داشون بغلش دیگه. درباره پیامبر خودمون هم باز آیات داشتیم. فقط اون سه تا نبوده. انعام نود اول چند تا پیامبر اسم میبره؟ که دیگه فرصت نیست نمیگم. اولای کاللذین حدالله فبه هداهم هدا مقتده میفهمن اینا کسن که خدا هدایتشون کرده بود انبیاء اسم میبره پس به روش ایشان اختدا کن تو هم باید همون مسیر رو بری ای پیامر به رسول ما چی؟ قل لا اسالکم علیه به همشون که باید بگید اینو یعنی یک کسی که تبلیغ دیری میکنه باید اینو بگید اینو. به گوش مردم برسونه که هیچی من گیرم نمیاد یچی من گیرم نمیاد. شرط تبلیغه یعنی اگه یه چیزی گیر... واسه برات به اون گوشه برای چی یعنی آ این پس اون بوده. خودم تا این مجموعه خودم تا جایی که تونستم مراعات کردیم مثلا این... سه چهار روز پیش بنده خدا اومد دفتر میگه بابا من زنگ میزنم میگم میخوام پول برات بریزم یا حال شما خوبه؟ گفتم آقا راستش رو بخوای به خاطر اینکه این پولی که شما امید جز دردسر برای ما چیزی نداره که تا خر تا پول میگزاریم یه خدای من کمک کردم دیگه مجموع مجموعه خوبی شناختم کمک کردم بغیش پدرمواد در بیاد آقا این خرج چی شد فلان شد بوده مثلا تصمیم اشتباه گرفته شده مثلا در مورد این موکب قرار بود مثلا ساختمون بزنن اون کسی که گفته نه من آهنا رو نمیتونم برسونم مثلا اینجوری مثلا این یه سال زودتر رفتم مثلا زیر ساخت شده این میلو هزینه شده ده. خود یارا از جیب داده خدا شد گفتیم نه نمیشه اینجوری بشته گفته من از جیب بدم چی؟ فکر کنم پول خودم باشه مشکل نداره. تا که بشه بعد اینا فکر برای چی اومدن بحث پولشوی مطرح که دارن مثلا یه جرم طبعیه یعنی پول کثیفی رو برده بچگاه کنی؟ به تمیزش کنی پول قاچاق و مثلا برداری بیاره اینه. اینه. پولی که مردم دارن میزنن توی حسابه که خود مشخصه کجاش این منبش معلوم نیست کیه؟ <تصحرت> رفته باید پرداخت کرده برای چی؟ برای اینکه میخواست میخواستن یعنی هدفشون بود که شما رو بشکن از نظر چی؟ چشم مردم اینو رو باید تو ابلاغ کنی بعضا شده مثلا به خود من میان میان آقا تو چرا به خود سخت میگیری؟ تو محل اسکان زندگی نوع ماشین هم نمیدن فلا میان فقط کافیه مردم یه خورده یه حساس دیگه تو چرا انقدر کتتنت میکنی دیدی؟ یه رو گیر میده دیگه میان پدر زنم کچلواریه چیکار کنم؟ سالی یه, یه کتم داره میدوزه یه دارم برما به دوزمون لا بچه که نیستم نمیپاره کنم میمونه این بچه‌ها ما ما رو نگاه کن بالا 15 سال پیش. این رژیم میگیریم لاغر می‌شیم، هیک حق همون همینا هستش هم. <تصفيق> <تصفيق> یا چه میدونم مثلا میدونم. چه میدونم. هدیه میخوام به ما به در یا بالاخره زنت بده هدیه میده. یا بچه های روز استاد بین جمع می‌شن با هم 95 تا پول گذاشتن میزنن یه کت چلبور برام. ما کت گیر میده تو چرا مثلا کوتات یا گرفتم. اون یارو که حرف نسلش از بیت‌الما شخم زدن بردن و فاسخو هم نیستن کار نداره ها میاد به تو گیر میده میاد یعنی به تو گیر میده یعنی ببین پس این که این همه تاکید شده درسته یا نه یا مکن با فیل بانان با مشورت یا بنا کن این فیل توش برات <تصفح> نمیشه دیگه درو خونت باید گنده کنی بیاد تو برن این فیلا یا خون نشو یا روحانی نشو یا دیگه بستنی هم تو دستنی بستنی که این تو خمون رابریقه بقیه بخوام کهش کاری نادونی باستر داره می‌خوره یا یا خون رو بگو <تصفيق> چرا میگه لباس پیغمبر تنت اصلا دنبال هم گیر بدن بابا مأیداره بچه مأیداره بهش ارث رسیده حالا واسه یه لکسوس سوار بشه چی بالای پرشیا اگه سوار بشه مرد این دوزیده این بالای پرشیا یا کجا برد میگه نکن به زور اصله گشتن بیخ یا اومدی زوابه و شرایط دارم ما اصلا کمه لابنش نری کار تبلیغ پیامبران که نمیشه نری کار تبلیغ را بننزد کن دستگاه درست کن بعضی مید دفتر مثلا سه طبقه چهار تا دارم پیاده بین خدا رحمت کنه رستم قاسمی رو برای انتخاب ریاست جمهوری بود کاندید شده بود اومد طبقه بالای بالات افتاد مریض بود دیگه بنده خدا افتاد همونجا درون صندلی نشسته بود پنکه آوردیم روز صورتش گشیم که حالش بهتر بشه گفت بابا لام از سبر یه جای آسانسور داشته باشه گفتم گرونه ها ولی نمچرا یه يوم انتخاب دیگه از این کاندیدا های رحمان دوست یه دست و یه پا نداره آنین چهار طبقه را هم می‌گیرید، به چه سختی؟ آدم مشتی و داشت مشتی هم از اجازه نمی‌داره کسی کمکش کنه یعنی خودم گفت می‌آم و کاری نداره شما پول مردم آسان آسانسوردارش هم بگیری اما باید یک کنی بهتون جواب بده دیگه من تا این حد مثلا ما هم مثلا این خونه یه جایی داریم بر جلسات و نماسخونه 4 پنج تا 6 تا کار انجامش اونجا. یه روز فیلم اونجا بیاد بریم میگه آ این دیواره. چهار تا استدیو اونجا. به خدا این دیوارش ما رمز اون کردیم این دیوارش سیاسی این دیوارش فرهنگی اجتماعی <تصفح> بعد همونجا اونجا حسینیه همون هم هست، همونجا اتاق جلسات بزرگ همون هم هست، همونجا نمازخونمون هم هست. چرا بابا برو بین پول بیت یه سالن کنفرانس دارن. یه آساند... اتاق رئیس یه آسانسور رو پشت داره ما دره در میخواد کسی رو بیاره این نبود یه بروههی برداشته بودن سونا جکوزی گذاشتن تو اتاق یه جر... مجموعه ای چکتا اینه برای خدمت بیشتر بعد ریلکس کنن تا بهتر بتونن خدمت کنن ما آزم رایگان ماساژشون بدیم بله اصلا تضاد طبقاتی من رو رو حرف دارم تو همین دعا اشاره شده تضاد طبقاتی یعنی این که اتاق رئیس طبقه بالا بالاییه باید باشه و اتاق آبدارچی بدتر اینجا چرا؟ چرا؟ تو از همینجا دارید تفاوتها رو قائل میشین مولای من شما اینطور نبود در حبر ما اینطور نیست از همین جه های شروع عادیه یعنی اصلا بگه عرفه یعنی چی؟ عرفه یعنی چی؟ یه داشتیم دو تا قبل این سمت قیامون طالقانی بود بعد اتاق من بود جلوشی اتاق کوچیکی بود که هم مالیمون بود میوید اونجا وای میستاد هم مدی داخلی اون خیلی کوچیک بود بعد من عموما مالی ما که کارمند بانک بود من و خدا. پیسیبل نمات کام که بعد از ذره بعد روزا می اومد. چیزی هم نداشت مؤسسه مثلا جی مالی داشته باشه خیلی نیاز به رسیدگی داشته باشه. من م... اونجا بودم من معمولا تو هم اتاق شیشه‌ای بودم. شیشه ای بود. هم بچه بچه‌ها میمدن هم می‌دیدمشون. کارا رو هم همونجا میکردم یعنی 95 درصد اونجا. سقف اون اتاق یه ریخت. <تصحنت> این با خواهد گچه پشتش به قولی با هم ریخت من تو اتاق نبوده صبح دیدم ریخته بچه گفتن اتون ببینه ها کن من از این اتاق استفاده نمی کنم خب به نظر من نشنیم یه رو سرتون خراب می کنم حالا یه برداشت بیگه زوغیه باید دقت کنید نیوت. برید سراغ بیزنس تو کسی ازتون نمی پرس. حالا همون برنا خدا یا آخوندی نباشه یا روحانی نباشه سوا یه نفر دیگه دیگه شد پرشه بشه درمیم دمشه نگاش میکنن دو تا ترمز بزنه شست نفر ریختن رو ماشین چرا؟ چی شد فرق کرد خب همین این مسیر اینه نه نو... نامه فدایت شبه تو رو خدا دعوت نامه نفرستی بله میگه به قبلی هم گفتم تو برو شما هم همون مسیر رو انجام بده و چی بگو قلو از از گوش شرط از شروط اصلی نبوت. در ادامه و ما قدر الله حق قدره و آنها خدا رو آنگونه که باید نشناختن آنکه حق قدرش اندوزش از قال ما انزل الله علا بشر منشعین خدا بر هیچ کسی از بشریش کتابی نفرستاده. بگو قل ما انزل کتاب جاء جاعب موسا بگو کتاب توراتی را که موسا آورد و در آن نور و هدایت خلق بود چه کسی بر او فرستاد که شما آیات او را در اوراق نگشته تجعلونه ها قراتیسن تبدونه ها و تا خونه کسی رو شما توی کاغذ اینا رو قایم کردید این خیلی جهودار داره میگه یه بخش کسیریش را قایم کردید بخشی از آیاتی که غیر یهودیان دسترسی ندارن بخشی از انبیاء الاهی را کتاباش کاغذ ها سانسور شده میدید بیرون یا یا خاخامتون میزنه بیرون یا یک چیشون مثلا اون هاجبابای غزمینی وقتی شیه شد ای عجب این کتابی هم داشتن به اسم نبایید هیالت رو همون خبر نداشت ما مسلم کجا میریزنم جو کتابی دارن اینا که تو اونجا تا دیتیل پیشگویی ها تا مجسمه آزادی آمریکاتون کتابه سکانس سکانس کربلا دو دستی که قد خواهد چون استخانهای سینه که در زیر سوم اسبان قرار خواهد گرفت هفتاد سال هشتات سال قبل اینکه که ما به دنیا بیاد آی قرآن ها تجعلون ها قراطیسن تبدونها ها و تخفون کثیرن بعضی را آشکار می و بسیاری را پنهان می و و را شما و پدرانتان نمی‌دانستید به شما آموختن بگو خداست که رسول و کتاب فرستد سبس آنها را بگذار تا به بازیچه چه خود فرو رو بدونید این آیات بعدش چیه اون پیغمبر را بعدش رو می بعد پیغمبر بگیم چیه یهوده و تحریفه و قایم کردن یه سری پیشگوی هاست. احکام الهی رو دستچین کردنه دوره ای میرسه که دستچین میکنه احکام الهی رو اینش رو قبول میکنه اینش نه میگه ببخشید این کاری که شما انجام منجام نمیدید این هم خدا خواستها چشت نگاه میکنه اصلا فلان چیز تو قرآن هست <تصح> سریع نه منظورش این نیست میشه معلم زبان عربی فارسیش نمیتونه حرف بزنه یوسف صد و سه و ما اکثر الناس ولو و لوحرست هر چند هرچند به تو به ایمانشون حریص باشی اما بیشتر اینا ایمان نمیارن. چی شده که بیشتر مومنمه؟ یه دقیقه گوش همین همینجا یه گل زده در حد لالیگا <تصفح> گوش کن. مگه اکثریت مسلمون نشدن تو اون جامعه؟ تقریبا اون جامعه چی شدن؟ چرا میفرماد؟ تو حریصی که اینا ایمان اما اکثر اینا ایمان نمیانه و ما اکثر اون نوست الا اینکه بین ایمان و اسلام فرقه بین ها مسلم شدن اما مؤمن نه خب کیو قبول نکردن اکثریتشون از جای جای قرآن قابل استخراج برای کسی که منصف باشه و ما تساله هم علیه من عج تو, تو از امت خودت اجر رسالت اصلا نمیخوای خبری امر نیستشه امرو نیست بخواه یا نخوا مثل تو نمیخوای این کتاب قرضی جز آن که اهل عالم را متذکر و بیدار سازد ندارد و که این من آ فی وال اررض یا رون علیه و و این مردم بیخرت داخلره برونده چه بسیار آیات و نشانه‌های قدرت حق در آسمان و زمین میگذره و ازش روی برمیگردن. یعنی مردمی که نشونه ها رو خدا رو میبینن اما توجه نمیکنن اینم بره تو صرف وسالتون بعد میفرماد اینی که دارم میگم تذکرها انهوا الا ذکرون تذکر دارم میدم ها مهمه ها یه یاداوری عرب یادگاری میذکرا دیدین ما میگیم یادگاری میرن در دیوار مینویسن یادگاری از فلان یادگاری از فاتحه آثار باستانی رو خوندن خب اون عربا هم چیز تکرار مینویسن میگه یاداوری، یاداوری، یاداوری چیزی هست دیگه ساعت هشتاد و شد دیگه ها همون شد بگید ساعت هشتاش قول ما از الکم شما جا بیافته خیلی مون قول ما از الکم علای من عجر و ما انا من اللو متکلفین پیان برای خودم بگو من از شماش هیچ نمیخوام و من از متکلفین نیستم ساده دارم بهت میگم مثلا <تصفيق> پیچیده نیست سخت گیری نکردم چیز خیلی واضو راحت دارم میگه. آقا من اجری نمیخوام نزدیک کنم با همین سادگی چیزی پیچیده هم نیست بگه مثلا این معادله علی انتگرال دوگانه رو باید حل کنی تو ببین بعد چی داره میگه شش تا تاس بعد بنوزیم هر شش تا شش بیاره تا ما بفهمیم چی میگه جوری نیست خیلی من باید. این هو الو ذکر للعالمین ولتعلمن نبعه بعده ولتعلمن نبعه بعده عادیه وقتی خبرشو میفهمی حتما براتون جا میفته نبع کلا شنیدید گوشتون حساسه دیگه میدونین من ای پیامبر بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمیخوام و من از متکلفین نیستم سخنانم روشن و همراه با دلیل است متکلف معانی مختلف آوردن ترجمه رو انتخ این کتاب جز تذکر برای جهانیان نیست و به یقین خبر آن را بعد از مدتی خواهید دانست. معمون از امام رضا در این آیات سوال فرمود. حضرت علی بن موسی الرضا از امیرالمؤمنین نقل کرد که فرمود مسلمانان به رسول خدا گفتن اگر شما مردم را به اجبار به اسلام دعوت کنی جمعیت ما فراون میشه. اجباریش کنی؟ همه فردا قانون هر که مسلمون نیست چه کش میکنیم تو خیابون میپرسیم سؤال میپرسیم داعشو نگم داشتن سوال جواب میکردن و در مقابل دشمن خدا پیامبر فرمود که در جوابش فرمود پر پرمود من نمیخواهم خدا را ملاقات کنم و کاری کرده باشم که خدا به من نفرموده باشد و من از متکلفین و اکراه کنندگان نیستم لا اکراحفت دین بعد ما به زور میخواهم همه رو مسلمون کن مسلمون که نه اشتبانه. شبیه خودمون کن فهم کنیم خودمون درستیم و لو شا عرب بکلا من فی الارض کل ما جمعی جمیعی خودم خواست کل زمین همه ایمان می یه پردر برمشه یه دور جهنم نشون بیداد همه ایمان می آوردن همونطور که همه تو قیامت چیه همه ایمان میارن همه راست میپسه درست بود. ای کاش میتوانستیم برگردیم همه دیدید اینا از گرفاشون ان ابی حمزه ان ابی جعفر از امان باقره و, تعل... و لتعلمن نباهو بعدهین قال اند خروج القائم اند خروج القائم وقت خروج مهدی ماست یا اون موقع میفهمید هم اینا زور رب داره تور چهل هم تسأله هم عجران فهم من مخرم مطقلون به این سادگی اینا قبول نمیکنن میگه یا ازشون جد می خواستم من مقر من از چی از یه چیز پر ارزش چیز گرون با مایه روی همچین چیزی خاصه و این و کسفن من ازماثاقتن یهقول و سها با مرکم یه از آسان بخوا یه چیچه سنگ رو جلشون میفته اینقدر اینا عوضی و زبون نفهم و و قبول نکنم که نه این سنگ یه ابر متراکمه. میگه ای آیا تو ای رسول از آنها اجر رسالت خواهی که زیر بار سنگین قرامت بمانند اینجا نکته ای داره یعنی این بار اجر خیلی ارزشش گنده است یه بار سنگین سقیله اینا اینا هیچ که سنگ ببینن از داستامون داریم ببینن است قوم زبون نفهم کتمان کن میرسیم یاسین بیست بود و بعدش تموم دیگه باقی خیلی مهم ها اینا تو بخش یبنه ها عمری باقی باشه یبنه یاسین اونجا میگم یعنی چی باز میکنم و من اقصال مدینه یه شهر دوری رجلون یسعا یا آقای رسولی را افتاد اومد قال یا آقا تبا المرسلین ای قوم تبعیت کنید از رسولان سه تا قبلش اومدن دیگه اولی دوتا تا اومدن بعد نفر سوم چهارمیه تبعیت کنید از مرسلین تبعو من لا یسالکم اجرا از کسایی که از شما چیزی نخواستن و هم محتدون و بین بی دونا هدایت شده بودن و هر کاری کردن و سرتیفیکت خدا بالا سرشون بوده تاییدیه داشته و ما لی لا عبد فترنی و ولا یتورجون چرا خدای که خود من آفریده نپرستم در که به او برمی گردیم به سمت او بازگرم نمیشید اتخذ و من دونه آلحتن رفتید غیر از او سراغ اله ها خدای های دیگه رفتید برداشتید بر خود این یوردن رحمان به ذره اگر خدای رحمان بخواد یه ضرری به شما برسید لا تاغنی عنی شفاعت هم شیئن ولا یونقزون نه شفاعتش میزنن نجاتی هست سراغ کی رفتی سراغ به چه دردتون میخورن اینا خیلی اینم در مورد قومیه که بطهاشون رو علم میکنن که وقتی خوب فیده باید کنم اصلا این آدم تو همین دنیاش ماهی دردسرته سرته شبسته اون طرف و این قوم مهمه این قوم خدا را قبول دارن گفتم به وقتش تاجیم می صحبت میکنم این قوم کافر نیستن این قوم خدا را قبول دارن چون وقتی رو باشون صحبت میکنه میگه خدامون مثل قوم نو که فرشته رو قبول داشتن توی قرآن منتو گفتن فرشته به چه کار ما میاد چجوری مثلا میشه دخل منو زیاد کنه خب شما تو آخر و زمان این گل بحث میخوام میخوان بشه همه اینا رو با هم داری یعنی بخش مشترک همه مشترک و غیر مشترک یا همه رو دوش عزت است. هست برای اون داده شده است. همه آرزوی دیدن شده یعنی امام صادق که اصلا رئیس مذهب ماست میگه من اگه دوران رو باشم خادمش میشم نوکریشو میکنم خیلی حرفه مقابل همه اینا میفرز چیا بود و از مردم چیزی نخواهید منتی سرشو نگذارید شما با پیچیده ترین ها مواجهید و ما داریم باش زندگی میکنم همون جوری که مثلا عرب جاهلی هایی بشیم گفتی شما خیلی جاهلید چرا میگفت دختر زندگی برو رو میکنم با فکرم چواه میکنم ما همه زندگی برو رو یامو یعنی حذیفه وقتی مثلا به پیامبر داره گریه میکنه حلقه خونه کعبه رو گرفته و حذیفه میگه آقا آد... چرا داره گریم میکنی میگه از دست مردم اخر الزمان جاهلیت اخرام میگه جاهلت مدرن ما ما آد... چرا گریم میگم یه ادمای خیلی جاهلیان پا... حذیفه میگه چرا میگه که اینا میدونن سی درخت میکنه درخ نه درخت میبینه میکران می میکران آب میدن میکنن میکنان نمیجون درخت میبینه میکنان درخ درخ حذیفه ای که جاهلیت اولی رو دید کف میکنه نهو کائن میشه نه فرنگا نفهم باشه بعد یه دقیق نگاه میکنن خودم بپرسم که شما مردم خیلی نادانین چرا؟ چرا اینجا علا یه درخت میبهن بهشون بدیدن <تصفح> بعد چیه همه جا همینه دیگه همه خیابونه همینه دو تا درخته مثلا همینه توت کاشتن ببین ملت آره آویزون از چادر نیزه دارن تکون میدن و... <تصفح> آ چرا مثلا مثلا می تو ایران مثلا گردو خوب بار میاد خورمالو بار میاد شاتوتو نمیدونم چی شهری مثلا این حواش به این چیزا میخوره دیگه چرا این کار نکردید می ببین کف گردن بهمون میگیره یکین می وقتی فرهنگیت میشه متوجه نمیشی فرهنگمون میشه با بدترین ها مواجهیم گرام فروشی داشت دیدی چه جوری داد بیداد میکرد؟ ما هم داریم چند فروشی داشت داریم هم جنسوزی داریم یه چیزای داریم ال جی بی تی و داریم چه اضافه میشه تو همین ماجرای افتتاهی المپیک اینا بعد جدا آقا من قول بدم که مجبورشم صحبت کنم نه اینا عادی نبینید تمام اینا یعنی از پدوفیلیا هم به رسمیت شناختن دیگه توی این افتتاهی هم آوردن پشتون شما آخره داوینچی به قولی نشوندن تحقیر مسیحیت وکیز که بر دنیا حاکم شده اینا را باید به رسمیت بشناسید. آقا فرق اینا فرق این وکیستا و این چپ ها با لیبرالیزم اجتماعی در چیه در اون لیبرال اجتماعی که ما قبولش نداریم اون میگه اگر یه روزی مردم به یه چیز خودشون رسیدن دیگه رسیدن دیگه گیر ندید مثلا یه زمانی ما مردا کرم زدن و بعد میدونستیم. قدیما مرد روزشت و کرم نمیزنه. الان لوازم آرایشی فقط فیلد آقاییم وجود داره. حالا لواز مارشی نگیم بیرون بیرالی ها دفته هم میزنه. اشکالی هم نمیمینه. با این کسی مشکل نداره ها. نه این که تو عمدن با رسانه تغییر داری میدی. به عمد داری این کارها رو میکنی. الان که دیگه تقربن پروتکل دیگه تو فیلم های هالیوودی حتما باید وکیستا با رو بهشون اهمیت بده یعنی حتما باید به همجنس بازی اشاره کنی به یه چیزش رو تا غول سبسید داشته باشه یه سری مشوق ها میرسه و تبلیغات بیشتر کمکت میکنن سال های سینما بیشتر اقتدار میذارن تجمل و برج سازی بود درسته میگه اصلا میخوان شهرشون رو معرفی کنم با برج بلند معرفی میکنن این کتاب زنده است دنیا زدگی داشت همه, حی... همه توی هم دنیا همه چه همج دنیا. الهه و بوت و بوت های جدید معرفه میشن آدمایی که مثل بوت میپرسند سبرریتی ظهور میکنن که جون میدن براشون کار عجیب غریب میکنن انکار وحی پیامبران صورت می‌گیره آه، انکار نشانه های الهی صورت میگیره در چه دوره‌ای؟ به من بگید نشانه‌های های الهی در زمین و آسمان از الان آشکارتر بوده. هیچ وقت نبوده. چرا؟ بشر رو زمین نشسته فرق سیاره و ستاره را هم نمیفهمه بعد بخ. سوراخ <سؤال> نورانی می دیدن گفتین نه نکنی اون چادریه این سوراخ اون بوده چیزی بود. الان ما سیاه چاله میدونیم دونیم ستاره آرمی شدیم سیاره این شدیم تپخترها ماده تاریک انواع کتوله ها کتوله سفید قهوهی نمیدنم چی ده ها اسم اسطلاح دیگه یک کتاب فقط اسطلاحات این هاست با تلسکوب اینا رو مشاهده کردیم محاسبات داریم اینه الان میگیم آقا مثلا چهار سال و پنج روز و دو ماه و پنج روز و این ثانیه این ساعت این خصوف یا کسوف شل میگیره این ستاره اینجوری رد میشه تلسکوپ میفرستیم بالا از هابل تا بعدیا چی همچین اشرافی داشته این فی خلق السماوات و يتفکرون نفی خلق السماوات و الارض میگیرم میشه مؤمنین ویژگیشون اینه میشن فکر میکنن تو خلق آسمان ها و زمین چی اینقدر آشکار بوده هیچ وقت نبوده این از فضای ماکرو حال فضای میکرو چیت شما میکروسکوپ داشتی بری توی دل مولکول بدون چی اتم بدون چی اینم الکترون و پروتون و نوترون و نمیدونم کوارک و مزون و باریون و نمیدونم چی چی است تو دل اذرات بریم مطلع بشی با ها چک کنی تو دو دون دور تلسکوپ تا میکروسکوپ دم دست بشر بوده انواع وسایل برای درک حیات زیر آب کجا بدبخت وقتش 5 نفس نگه داره اون دائم ساعت می‌رفت یا بازی می‌کرد برمیشته. الان چهار کیلومتر می‌فرسته اون غوغی یه ماهی وجود دارد نمیدونم تو این اون فقط شنا می‌کنه چه شما خبر داشتین؟ از کی می‌رفته نوک قله برس؟ دیوونه بوده بربا چی بود می‌رفت اون بالا؟ از بالاترین نقطه تا قعر زمین رو حمر درید. شدت این کار رو می‌بینید؟ بشر منکرتر شده. میای قرآن چی بود میگه اگر از آسمون سنگ بیاد میگه نه یابر متراکمه. شروع می‌کنم توضیح حاضر ننه بابای خوش میمون بدونه خدا قبول نکن عجیب یعنی حاضر بگی من مثلا میمون تکومولیافتو این چیزها اورانگوتان رو نمیدونم چی اینا رو حاضر بپذیر اما خدا نه یعنی یه نفعه فقط هم بدن انسانو رو بشنس میکروب مگه میفهمیده باشر چیه؟ باکتری میدون میدونیم چیه؟ از موقع که باکتری و میکروب کشف شد یا پزشکی قدیم کنار گذاشته شد دیگه. بابینی کن حیفه فقط یه نفر بره تو سلول آدم برگردی و بیاد بیرون و ایمان نایورده باشه واقعا بیماره. چین اطلاعات تو دی ای قرار داده؟ میلیون ها صفات الان که دیدید اصلا همه این چیز رو اکثرش اکسرش دارم به جنتیک ربط میده. خب بشتر این شدت انکار نبود نه الان وقتی ایمان آوردن بودم این انکارم توزی بیشتر شد پیغمبر فرمود ما اوزی نبی یا مثل ما اوزی تو هیچ پیغمبر اونقدر که من از زید شده از زید نشد حالا پیغمبر ما چه از زید به این حضرت ولیه هستشی میکشی حباز اصر ما با اصر زمان پیغمبر چی؟ قابل مقایسی نیست حوزعیفه دهنش باز تو اون روایت چلتان هفتاد تا نشونای آخر زمان حوزعیف پیمت رو گریم کن حوزعیفه دهنش بازمونده اینه که هن واقعا میشه و برای چی این کارو میکنن در مجموع چیا گفته بود شما نمیتونید اصلا عجر رو بدید من اصلا شما نمیخوام پول نمیخوام خرجی نیست مالی نیست عجر من دست خداست عوضش سمت خدا بیاید کمک های شما باقی نیست فتر خدا من آفریده چی باهم بده که جذاب جذبتر دارای شما احمقانه برج سر کوبه چه درد من میخوره عجر دنیاوی شما باقی نیست عجری خوبه که باقی باشه تطرکونه فی ماه ها ها آمنین همینجا میخوایم اینجا بمونید همینجا امنیمونه هم فکر کردید اینی که دارم میگم تذکرها ان هو وللا ذکرون للالعالمین خیلی ساده دارم بهتون میگم متکلف نیستم سخت برخورد نکردم راحت بتون انتقال دادم عجر این کار بسیار سنگین شما مال این حرفا نیستید من مغرم مسخرون به این سادگی هم قبول نخواهن کرد سنگ از آسمون میگم ابر همه این آیات جمع کردم آخرش که چی پس نتیجه ما درخواست عجر مادی نمی کنیم همین برای ندارم همی من درخواست عجر مادی با این آیات همه همه هم از قرآن یه دون عدیس نایی بردم که فردا بردار اهل سنت اون در عجر مادی اصلا نیست ببین نگاه کن شما الان میری پی... هر زحمتی یه اجری داره میری پی... پیش پزشک ماهی نمیشی ویزیت پول, پول ازت میگیره هرچی متخصص تر گرون تر درسته حق مشاوره شو میگیره بابتون ده دقیقه که تو مشاوره میده میگه از علم من داری استفاده میکنی بعد علم اولین و آخرین دستش و... حق ویزیتش چیه که <تصفح> دو میلیارد آدم میلیون ها نفر رو نجات بده آدم میخوردن چش <تصفح> بوده آدم زنده به گور میکردن بیا مردم اینجور نجات بدی پاداشش معنویه میگه مادی نیست و این معنویت خوبی به نزدیک کنم قربا مؤنس اقربه کبرا اکبر فعلا افعل ها قربا یعنی نزدیکترین هام خانواده نزدیکترین هام اونا که به من, از... من از همه نزدیکترن مادی نیست معنوی این ها. ببین اگر جزء این باشه بازم مادیه یعنی چی دقیق گوش کن آی دکتر بله من رو ویزیت میکنین بله وزیت میکنم من پول نمیخوام بهت بدم اولش پسرتون میرسونم مهد کودک یه همونه اولش خدمتی به بچم کن پس بازم شد مادی تمام این آیات میگن ما اینجوری حساب نمی کنیم معامله کالا در مقابل کالا یا خدمات در مقابل خدمات نیست چرا این مبدت به درد خودتون میخوره ما سهلتون لکم لام لام منفعت برای خودتونه و این راه خداست و وسیله خداست این پرداختم زورکی نیست من متکلف نیستم مردم خودشون باید بخوا مثلا امامت فرقش با پیغمبری در اینو پیغمبر میری سراغ مردم امام باید بری سراغش مثلا امام که مثلا الکعبه خودی باید بخوای ابو عبدالله چیکاریا چرا خاموشش بپاشید برید پسر عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد کسی که بیعت نمیکرد یعنی چی یعنی منم به بجنگم گفتم بس بکوشمش دیگه زوتاری حضرت فرمود که یه زامنی بیار که حالا بیعت نمی‌کنه اما قیامم نمی‌کنه و نمیارم حضرت فهم خودم زامنش میشم که این قیام نکن کارش نداشته باش خود رفتی وام بگیری از بانک خود رئیس شعبه برات وسیقه گذاشت خودش زورکی نیست پاداش باید هم سنخ باشه با اون نوع عجل اگر پیانبر بخواد اجری بگیره برای این همه زحمت که گفتم بابا اهل پول میخواست کل, ا... کل اموالشون رو وقف میکردن امیرانون هزار تا برده آزاد کرد به ما حسن میگه, میگه پسرم هزار تا برده آزاد کرد امام سجاد هزاران چاها که جا جاپا میذاشتن بیان بالا دیگه تو راه بود یعنی سر حضرت هنو به سطح زمین نرسیده بود وقفش کرده بود هنوز که میری مدینه ابوار علی یعنی چاه‌های علی هنوز است. هنو آب میده. بعد 1400 سال. هنوز اونا دارن از اون منفعت می‌برن. پیامبر زحمتش رسالت و آبردن دین بود، پس پاداشش هم حفظ همین دینه. دارید یعنی برید دور این نزدیکان من جمع بشید که دین حفظ بشید که راه خداست که برای خودتونه همش شای قرآن رو دار خب میشه پیانبر مثلا در عوض این عظمت رسالتش دنیا رو تکون داده فقط در عوض محبت تعداد انسان محدود رو بخواد که گناهکار باشن میشه ببینید من این همه زحمت کشیدم بلاخره همه آخرت به اشنا این ها دوستشون داشته باشید گناه هم ممکنه بکنم من نمیدونم خدا خدا به کی چکر سفد امزا داده کیو تو همین الان روی کوره زمین جز حضرت ولی هست بذاری گنام میتونیم صد درصد چکر سفد امضا بذاریم بگیم که چی تو مسیر میمونه وقتی زبهرها کل پا شدن میتون چیست بعد میتونیم بیاد رسالت خودش گره بزنه به یه سری آدم غیر از همین آیات اسمت و اون ذلقربا اثبات میشه. بعد قطعی باشه پیامبر میگه حافظ این گنجینه دینن. فقط از طریق اونها میتونه ادام پیدا کنه. شیعه اسماعیلی تنها گروهی روی مسلمین روی زمین که قائل بر اینه که ادامه اون مسیر هست و هنوز زنده از بینشون کسی هست. خلفا اسماعیلی من براتون مفصل بحث کردم تو جلسات دیگه غیر شردو به که میگه بعد از پرمبر دوازده تا خلیفه میان تو این مسئول ادامه میدن خب اسم لابا ببردن اهلوزان میگه دوازده تا رو اسم ببرید ما فقط کیان؟ همه؟ هلی تونستن اسم ببرن؟ بعد تا همین الان باشن همین اثبات میکنه که حضرت ولی زنده است همین صورت میکنه حضرت ولی هست زنده است تو تاریخ هم هیچ کس نتونست هیچ گناهی به احل نسبت بده که به چسب بشون هیچ نمیتونه هیچ کس هم نتونسته نسبت بدهینه یا استاد ویژه‌ای داشتن امام جواد هشت سالشه سه سال آخرام امبرزا رو ندیده یعنی امبرزا میبرن مرف سه سال طول می‌کشه دیگه سه چهار سال طول میکشه. چجوری آبر بابا در ماجره امام که بچه 4 پنج ساله بود رفتن امام رو از تو خونه پدرماده گرفتن گفتن این اصلا جدا بدیم یه ناسبی بزرگش کنه مسئله حل یک سال بعد ناصبی شیعه شد میهدی اونو میگه اون بچه هاشمی چا گفت بچه نگو این من یا آیا ازش میپرسم کل قرآن براش میخونه قبل بعد بعد یه سوالاتی میپرسه از من من تو گیرپاچ میگفتم این افقه های شهر بود ها رو که گذاشتن گفتن ببین یه چیز میخوای بسازید دیگه نسل اینا دیگه دست ما باشه الان مگه بچه های مسئول نمیبرن خارج تربیتشون میکنن من اندیشه اون موقعم بوده گفتم میخوام ناصبی بربرش بریم ببینم چه میکنی س... گفت سلام علیکم علیکم سلام پف <تفق> ناصب کنیش یه برگشت از یاران خاص حضرت عادی شد <تفق> معلم ناصبی کی بهش یاد داده؟ کدوم استاد؟ استاد خوش ناسبی بوده این اجر رو میخوام از کسی بقید اتخاذ سبیل و راه به سوی پرورده گذاری یعنی عجر من همون راه به سوی خداست همون سرات مستقیم همون مگه نمی قرآن مگه یه کل عمر شما سلوات بذاریم کنار کل عمر شما فقط یه دعا از خدا میکنی اهدن سراطل واجب باشه بقیه دعا همه چیه؟ میگه این همون راه هست یعنی واضح تر میگه و از کسایی میخوام که دوست دارن تو مسیر خدا باشن و بعد این راهو برن با اون همون زباعت و مقدس هست آی قرآن و یوم یعدد دال ما علا یده یقول یا لیتن اتخذت معا رسول سبیلا اون دنیا تموم میشه میگه ای کاش من با پیامبر سبیل رو انتخاب کرده بودم معرسول سبیلا که باید تو میگه نحن سرات المستقیم سبیل من بودم امیران بودم. سبیل ما بودیم بس گفتم روایت هم به فرض کار نداشت میشیم پس گفتیم بقی آیات رو میذاریم که همون تا که حضرت صادق معرفی کرده سه معادله سه معچول طرف اول برابر ما اصل طرف لیمی یک راه به سمت خدا خداست دو برای خودتون خوبه موادت اقربای پیامبر و نزدیکان پیامبر لذا خدا برای این گوشه نکته زریفی لذا خدا برای این راه جایزه گذاشت الان قوانین تشویقی نداریم تو کشورم یه سه تا بچه به دنیا بیارید نرم زمین میدیم چهار تا بچه برای چین کار میکنه چون برای اون جامعه چی میدونه اینو خوب میدونه خودم گفت برای اینکه تو این سمت این آدم بریم چی قرار بدم بگید علمو با اونا داد همیشه چه اونا داده یعنی بهترینن به بخش مثال, مثال تو این بازار مغازه ج... بهترین جنس مالیشنه پایینترین قیمت همین سورس هم اینه به بقی مغازه همیشون داره جنس میده تو بیره از او ببینید شفاعت هم داد بینو گو اگه او بیه، ببینید بچه های یعقوب تنشون میخاره دیگه سرهای یقوی شما حضرت یوسف و بنیامین بذکر بقیهشون یه خوردیگه من از دنها لاوی کمترون یهود از همه بیشتر باباها را قبول نداشتن اصلا تو یه جای ات میدوند که بهش می نزن مطلق توهین زن توحین می کنن نمی دونن بعد این که ماجره تموم بشه خب بگو خدای ببخشید ای پیامبر ما با بگو بگن غلط کردم منم یا ابانا استغفر لان باید به تو بگم این چرا این قرار میده اونجا که بفهمید همه حرفای این دو. باید این, با این رابطه رابطه من رو با واسطه من رو قبول کن فقط از اینجا شما باید پسو بزنی. پس بزنی رو بزنی ولی توی این کارتت رمزات بزنی ولی هزار میلیارد پول توش باشه من نمیزم بایدم دست عقوب یا با استغفر لان نکن نخاطرین باید پدرتون استغفار ببیتر خدا گوش نداره خدا رئیس دفتر میخواد خدا برای چی توسطن خدا یه چی دیگر پر پرفسن قوانین تشویقیه که بری سراغ همونا چون اگه سراغ یکی شون رفتی ازتون داعش زد بیرون کوری <تصفح> سراغ یکی دیگر رفتی فلسطین ها ردن تیکه تیکه میکنن صدات بعدی هیا ته جره چشتونه بچه داره تیکه تیکه میشه به مدد همین رسانه هم داره جهانی میشه به چشم دارید میبینید چه نمیبینید یه فرقی دارید با ایرانی ها و یمنی ها و عراقی ها و لبنانی ها خب فرق چیه عرب و فارس بودنه لبننم که عربه عراقی هم که عربه یمنی که عربه یه چیز دیگه اینجا فرق داره این همون راهیه که نرفتیده اجر رسالتش پذیرش آنها بود دوستی کردن با آنها بود تبعیت از آنها بود که این ف... لکم برای خودتون بود به خودتون خیلی میرسید و این راه به سمت خدا بود خود اینجا قوان تشویقی گذاشت که شفات <تصفيق> حالا تو این دنیا این قوان تشویقی معمولا برای خود مدیر خوبه به خودش میرسه مثلا زودتر سر سرکار این شرکت خصوصی مثلاً نه اینجا میگیم برای خودتون خوبه تون به من خدا میخواد چ بر دامن کبری هاییش ننشیند گرد یه ذره تو کائنات نیست دستن دیده نمیشی دستن یه آیه سیاد چالکیناتون در میگورتتون میده تماش خدافاده فکر چی؟ یعنی از این اصلا واضح‌تر خود با تو قرآن حرف می‌زاد؟ این صراحت می‌زاله قو. چون انکار، انکار. نه این سنگ نیست، ابرموتاب. نه این قربا کیان. ببین نزدیکان خود پیغمبره نگفتی، گفته کلاً میو از رسالت من چیه؟ با فاک و خودتون خوب باشید. عجب. فاک فامیل اون چه ربطی به دین پیغمبر، فاک فامیلش کافر، فاک فامیلش مشرک، هن. فاک بعداً چپ و یعنی اگر تو آیه پهیمر بر فرمود بروید مثلا چه میدونم صدقه بدهید باز من یه جوری میپذیرفتم مثلا نماز بخونه یه جوری می‌پذیرفتم میدونه اجر رسالت من ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو هیچ پیغمبرم هم تازه مثل من نشد پیغمبر دید چه بلاهای سرشون رو بردن هیچی ازتون نمیخون فقط یه چیزی میشه با فامیلاتون خوب باشید ظاهرا صد هزار نفر آدم جمع که راست یه نکته ای. اونا که رفتن برگردن که وسی همه گرما گرما کولرگازی گازی نیست که داداش هم بچه کوچیک اون یکی عامله اون یکی زائده اون هزار چون دسته و, و دسته همه جمع بشید جهازای شطورو بچین بریم بالا یه نکته من ایشا دوستش دارم از اینا دیگه لایک کنید لایک کنید خب بریم بقیه صفه یوراست دیگه بس سه روز نگهشون داری تک تک آدم رو بیار بگی به اعط کن مرد و زنشون مرد و دست دادن یا تشتواب گذاشتن امیرام دست تشتواب کرده بود زنا اون طرف تشتواب دستشون میجند حمتون حمتون میتو و ان الله يحسمكم بلغ ما انزل لک حتما و ان بلام تفر فهمو بلغ تا رسالت اگر اینو نگی رسالت خدا رو انجام ندادی خب بقیه صحابرا یراسه اینم دوست دارم یه روز دیگه ایشون هم دوست دارم و همه جام جمع کنید، اینجا بگو دوست دارم دیگه یعنی به فقط به خدا عقل میخواد عقل و انصاف، هیچ چی دیگه نمیخواد هیچ چی دیگه نمیخواد، همه را جمع کردن بگو بعد اِنَّلَایِ عَسِه مُکَمِلَنَنَّاسِ نه ترس بایانبر، بگو خدا حفظ میکنه چیه که به بسا بگو آقا، آقا، آقا آردوستش دارم الان شمشیر میکشه. ای چرا؟ بعد چه پیغمبری؟ پیامبری که تو دوست داشتن رحمت الله قاتل حمزه رو بخشیده قاتل حمزه سید و وقت رو بخشیده مردم آخ نگفتن گفتن دمشگم چقدر بخشنده است ابو صوفیان خانواده شو بخشیده بعد فطر مکه که خود مردم بودن این الان تیکه تیکه کنیم جیگر حمزه رو مامان ماویه در از گردنش گردن گردنبند باش درست کرد از نخرت کرد تو گردنش آویزون میکرد خب شما حق قصاص نداری؟ پهیم بفا ببخشیدش تو لقان. هم که نه همه رو دوست داره انقدر بخشند است رستی یه نکته همه رو جمع کنید اوه فلان حجت و الودا. ما قوانین حجمون تو ارکان حجمون با اهل سنت خیلی به هم شبیهن. می‌بینی چرا؟ به خاطر حجی که پر سر و صدا برگزار کرد. همه رو با هم برد به اون روایتی که نقش شده شبیه هم نقش شد. اشتراکاتم خیلی زیاده. خب؟ همه رو جمع کن. من علی رو دوستش دارم. بعد من کنتو مولا فهازا علی ببین چیه جوری بسته ماجرا رو کی رنگی علی دیگه ای یا حسن آقا میگه حسن آقا باقل نمیگه حسن آقا گفتن نه فحو علی همین علی که دستش تو دستم هم. همین که تو دستم نگاه کن همین همین همین برو بلندی باشید همه هم ببینن دیدید دی شنیدید دی بله میگه خود عمر اومد گفتش که بخن بخن مبارکت باشه یا اسبحت مولای و مولا كل تو مولای ما و مولا همه مؤمنی شدی اون روز روز عجیبی بود گفت امروز دل‌ها رو همه رو برمیگردونم ان الله یعصمکم من الناس و اما بعد خوب به احلویت من خودت خوبه آدم امام حسینی هستی آدم احلویتی هستی مردم اشتابه تحال میکنن مردم اشتابه به اعتماد میکنن نه اینجا ها. تو خارجش هم یا یارو یا کلیسا میره احتمالا خیلی باید به دقت کرد چی میشه نمیبینن یه ده؟ انکار انکار ایمان به این سادگی نیست همین الانش تو منبکیت شیعه تو مسلم سری دو تا دعوی سیاسی چیزای ما دیدیم از کسایی که فقط بدونید به خاطر آرامش مردم ما حرف نمیزنم والله چیزایی دیدم کارهای عجیب قریبی دیدم یه باورم نمیشد یعنی میگفت من دارم اشتباه میکنم یه ما بگذره دو ما بگذره اینم گفت اونم گفت از کسایی که مثلا شما اصلا به خواب شبت هم نمیشد یعنی هنوز هم وله میکنم قدرت آقا طرف میبینه من میخوام حکومت رو به دست بگیرم بعدش بیام علی قبول کنم اگه علف رو بگم تا یه باید برم بچه میگو بگو علف نمیگو ساده است چرا نمیگه همی یاد گرفتن علف <تصفيق> بگم تا یه باید بگم ما اول قبول نکنه راحتم پس از این اسمتشون اثبات شد بودن همیشگیشان اثبات شد باید همیشه یکی از اینها باشه و اثر رو بگذار در هستی و اینکه بر خود ما خوب اثبات شد و اینکه این اجر متناسب با اندازه رسالته با اندازه کاری که کرده همون پول بدیاش میخوری اما کارگر یه ساعت باز کار کنه یه قد مقدارش دستمزد میدی یه روز کار کنه یه مقدار دیگه و از جنس همون هم هست و باقی می‌ماند بر اون خونه مسخرهشون می‌کنه چی برج می‌خوای به من بدین برو جمع کن بابا دین جانم دیگه خیلی بده حال بدن میگن آقا بیا تو الهیه تو فلان برج یه پنتهاوسش بیام حال تو میخند برج میخوایم به من بده بابا باقی هم هست اون ورتازه دستت رو میگیره الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصوم اللهم عجل لوليك الفرج ولا عافيه و جعلنا من خير عباده انصاره المستشهدين بين يدي تجلرو فرج قطب علامه كون از اصحاب زمان صلوات